اقای فیلیاز فاک مرموز ترین مرد لندن بود. اغلب از جمع دوری میکرد در نداشت نداشتون چشم باشه در عین حال شخصیتی محترم و مبادی آدابی داشت تو محافظ شرکت نمیکرد ولی کل لندن روش حساب میکردند. مردم شهر همیشه در مورد رمز و رازهای پولدارترین عضو باشگاه سرگرمی یعنی آقای فاگ حرف می زدن. اما کسی از زندگی خصوصیش خبر نداشت آقای پاک خانواده ای نداشت تک و تنها توی خونه بزرگ و مجللش زندگی می کرد همیشه هم تو خونش بود فقط بعضی وقتا به باشگاه سرگرمی سر می زد. با اینکه زندگیش روشن و دقیق بود باز مردم منتظر بودن یه روز راز زندگیش برملا بشه اما آقای فاگ راز بدی تو زندگیش نداشت. برنامههاش ساعت به ساعت مشخص بود و دقیقه جا به جا نمیشد. آقای پاک ثروتمند بود اما کسی نمی دونه ثروت از کجا آورده. اهل ولخرجی نبود اما بلد بود پولشو کجا خرج کنه؟ همیشه داوطلب کارای خیر میشد و تو خفا به مردم کمک میکرد. آقای فاک اهل سفر نبود ولی همه جای دنیا رو مثل کف دستش می شناخت. انگار که کل دنیا رو دیده باشه. اصلا شاید تو خیالاتش به سفر رفته بود. خیلی ها حاضر بودن قسم بخورن آقای پاک تو عمرش فقط مسیر خانه تا باشگاه سرگرمی رو رفته. تنها سرگرمیشم هم روزنامه خوندن و کارت بازی بود. بازی رو تو سکوت مطلق و با تمرکز انجام میداد. اگه پولی از بردگیرش می اومد خرج خیریه می کرد. همیشه هم بهترین هم رو پیدا می کرد. نظم توی زندگی آقای فاک حرف اول رو میزد. منظم بودن باعث شده اوتد تا بخواد خدمتکارش رو اخراج کنه. جیمز خدمتکار آب رو به جای سی و پنج درجه سی و چهار دریجه گرم کرده بود و آقای فاک سریعا اخراجش کرده بود و دنبال خدمتکاری منظم می گشت. آقای پاک بین ساعت یازده تا یازدامنی منتظر خدمتکار جدید بود روبروی ساعت آونگدار نشسته بود و زده بود به اقربه ساعت اونقدر دقیق بود که نفسهاش با سانیاها هماهنگ شده بود چند دقیقه به یازده جیمز خدمتکار در زد و گفت خدمتکار جدید آمده مرد جوان و چهار شونهای توی چهارچوب در ایستاد و سلام کرد آقای فاک به ساعت نگاه کرد هنوز یازده نشده بود که از جاش برن شد و گفت شما فرانسوی هستید و اسمتون جان درسته؟ اسمم جان قربان ولی همه پاسپارتو صدام میکنم یه جورایی آچار فرانسه هم تاره چند تا شغل عوض کردم اول خاننده دورگرد بودم بعدش یه مدت تو سیرک سوارکاری میکردم چند وقت بعد مربی ژیمناستیک شدم تا از استعدادام درست استفاده کنم وقتی برگشتم پاریس آتش نشان شدم الانم پنج سال تو انگلیس خدمتکارم دوست داشتم طعم واقعی زندگی رو بچشم اما دیگه خسته شدم دیروز فهمیدم شما دنبال خدمتکارین وقتی شنیدم منظم ترین و خونه نشین ترین مرد انگلیسین زود خودم رسوندم درم میخواد زندگی آروم و بیدقدقهی داشته باشم اونقدر که اسم پاسپارتو رو فراموش کنم ولی من از اسم پاسپارتو خوشم میاد اطلاعاتتون میدونم. شما شرایط منو کامل میدونی. بله آقا ساعتتون چنده؟ یازده و بیست دو دقیقه ساعتتون اقبه اقبه؟ امکان نداره ساعت اجدادمه تا حالا یه ثانیه هم اشتباه نکرده ساعتتون چهار دقیقه عقبه ولی مسئله نیست من امروز رأس ساعت یازده و بیست و شش دقیقه چهارشنبه دوم اکتبر شما رو استخدام کردم. کارتون از همین الان شروع کنید. فاگ کلاهش رو به نشان احترام برداشت و دوباره مثل ربات سرش گذاشت و بعد راهی باشکاخه سرگرمی شد. پاسوارتو تو خونه درندشت فاک تنها موند. چند دقیقه وسط خانه ایستاد و با حیرت دوروبرشو نگاه کرد. شوکه شده بود ارباب جدیدش شبیه مجسمه های مومی کم حرف و عصا قرد داده بود ولی ازش خوشش اومده بود اصلا آشق کار جدیدش شده بود بعد یه اماگ را دنبال سکون و ناز بود دلش میخواست یه جا ساکن بشه و کارهای تکراری و دقیق انجام بده ارباب جدیدش دقیقا همونی بود که پاسپارتو دنبالش بود بودن کنار مردی که دقیق و وخش شناسه براش مثل رویا بود کسی که جای حرف زدن فقط عمل میکنه پاسپارتو بعد از خدمتکاری به درد نخور و مست بالاخره ارباب باب میلشو پیدا کرده بود لبخند زد و سرشو به نشونه رضایت تکان داد دلش میخواست همه جا رو ببینه، برای همه معطل نکرد و به همه جای خونه سرک کشید. خونه منظم و مرتب بود، همه چیز سر جاش بود و سکوت آرام بخشی توی فضا موج میزد. پاسپورتو رفت اتاق خودش، چشمش به برگهی که بالای ساعت آویزان بود افتاد. توی برگه برنامه روزانه آقای فاگ ساعت به ساعت نوشته شده بود با حای بشکنی زد و گفت همونیه که میخواستم فیلیس رأس ساعت ساعتی نیم از خانه بیرون اومد پونصد و هفتاد و بار پای راستش و پای چپش گذاشت. و 576 و شش بار پای چپش رو جلوی پای راستش تا به باشگاه سرگرمی رسید وقتی وارد باشگاه شد نهارش روی میز حاضر بود پشت میز نشست و ماهی آپز با سس مخصوصش رو با اشتهای کامل خورد وقتی نهار تمام شد ساعت دوازده چهل و پنج دقیقه بود آقای فاک پشت میز کارش نشست و پیشخدمت خدمت روزنامه تایمز رو گذاشت شروش روزنامه رو با دقت خوند بعد روزنامه بعدی رو برداشت و مطالعه کرد باید با دقت اخبار رو میخوند تا از اتفاقات باخبر شد فقط اینجوری میتونست کمک به سیاست و اقتصاد کشورش کنه طبق معمول حدود ساعت یک رو به شش روزنامه رو تا کرد و رفت به تالار اصل باشگاه حسای باشگاهی سرگرمی رأس ساعت شش تو تالار اصلی جمعی شدن و بازی می باشگاه شش عضو داشت آقای فیلی دو دوتا از بانکدارهای بزرگ شهر رئیس کارخانه نوشیدنی لندن بزرگترین مهندس لندن و گوتی رالف یکی از مدیران بانک بزرگ انگلستان بود تمام اعضا پشت میز نشستند تا بازی رو شروع کنند. همون موقع کارخانه دار پرسید آقای رالف ماجرای سرقت بانک به کجا رسید؟ مشخصات ساره رو پیدا کردیم؟ رالف جواب داد امیدوارم دستگیرش کنیم فکر نکنم بتونه فرار کنه کارگاه های ماهری دنبالشن به نظر ما کسی که پول پولو برداشته سارق معمولی نیست آقای فاگ سکوتش رو شکست و گفت شنیدم مرد متشخصیه آقای فاک خبر رو تو روزنامه خوانده بود میدونست پول زیادی از بانک انگلستان سرخت شده دزدی خیلی ساده اتفاق افتاده بود وقتی صندوقدار مشغول کار بوده مقدار زیادی پول در عرض چند ثانی از روی میزش قیب شده بود بانک برای احترام به مشتری ها نگهبان نداشت. به آبرو و شرافت مردم هم خیلی اهمیت میداد. یکبار شمش طلایی بین مردم دست به دست شده بود و دوباره از رو میز صندوق دار سر درآورده بود. اما این بار قضیه فرق داشت. بانک موقع حساب و کتاب آخر وقت متوجه شده بود ازش دزدی شده. از همان ساعت اول ماهرترین مأمورا و کاراگاه به بنادر انگلیس اعزام شده بودند. هر کس که دزرو رو پیدا می کرد پنج درصد از پول سرقت شده رو جایزه می گرفت. میگفتند سارق مردی مهربان و محترم بوده. داستان سرقت پول به خبر داغ انگلیس تبدیل شده بود. امکان نداشت پاتو تو خیابون بذاری؟ و چیزی در موردش نشنوی باشگاه سرگرمی هم از این قاعده مستثنا نبود به خصوص که مدیر بانکم هم عضو باشگاه بود. طوری که حتی موقع بازی هم در مورد سرقت حرف نمی‌زدند. یکی از بانکتارا کارتش رو روی میز انداخت و گفت: به نظرم دزد خیلی ماهریه. شاید تا الان از کشور فرار کرده باشه. آقای رالف جواب داد: چی میگی آقا؟ کدوم کشور روش میده؟ کجا رو داره بره؟ بانکدار گفت نمیدونم ولی دنیا خیلی بزرگه آقای فاک بدون اینکه که به کسی نگاه کنه گفت قبلا بود بانکدار با تعجب پرسید چطور دنیا آب رفته؟ رارف سرشه اتکون داد و گفت بله من با آقای فاک هم نظرم دنیا واقعا کوچک شده تازگیا میشه ده برابر سریتر از قبل دور دنیا سفر کرد بانکدار که قانع نشده بود گفت آقای رالف استدلالتون در مورد کوچک شدن دنیا خندهدار و بیمعنیه یعنی حالا که میشه دنیا رو در عرض سه ماه فیلاسوفک بدون معطلی گفت سه ماه نه هشتاد روز آقای مهندس در تعیید حرفای آقای فاگ گفت طبق محاسبات جدید از وقتی خط راهن روتال هند راه افتاده سفر دور دنیا شده هشتاد روز حتی جزیات مسیر رو هم محاسبه کردن آقای فاک دوباره گفت همه اتفاقاتی که ممکنه تو مسیر پیش بیاد رو هم در نظر گرفتن بانگدار با تحجب پرسید حتی اگر دوزا خطا رو بدوزن یا قطار از ریل خارج بشه اگه راهزنا حمله کنن اون وقت چی؟ آقای پاک با خون سردی جواب داد حساب همینجا شروع کردن بانکدار که راحت قانه نمیشد گفت گفتن راحته ولی عملی نیست من ویدیاز فاک حرفش رو قطع کرد اشتباه فکر میکنید ماسبات دقیقه مطمئنم جواب میده بانکدار گفت بدم نمیاد ببینم خودتون از پسش برمید یا نه حاضرم شرط ببندم نشدنیه آقای فاک کارتی انداخت و گفت دور دنیا در هشتاد روز بدم نمیاد امتحان کنم منم نصف داراییم و گرو میذارم که از پسش برمیام بانکدار گفت آقای فاک کی راه میفتین آقای فاگ گفت همین الان آقای فاگ تصمیم گرفت حرفش ثابت کنه اعضای باشگاه با اکراه و عذاب وژدان تصمیم آقای فاگ رو تایید کردند آقای فاگ مسمم و خونسرد کلاهش رو برداشت و روسرش صاف کرد بعد از باشگاه بیرون آمد نباید وقت رو طرف کرد. پاسپارتو ساعت رو نگاه کرد، هفت و پنجاه دقیقه بود. طبق برنامه عربابش حالا حالاها بر نمی گشت. ولی فیلیاس ساعت هفت و پنجاق دقیقه در خونه رو باز کرد. پاسپارتو از هجو شاخ در آورد. عربابش دو بار زد تا به خودش بیاد. آقای فاک بیمعتلی گفت قرار بریم سفر ده دقیقه دیگه حرکت میکنیم. ابروهای پاسپارتو چین خورد. فکر کرد اشتباه شنیده. بلا فاصله پرسید. سفر؟ بله. قرار دور دنیا رو بگردیم. پاسپارتو بینوان ناراحت و سرخورده شناهاش آویزون شد. بخت زده به فیلیاس فاگ زد. دلش نمیخواست سفر کنه. اومده بود خونه فاگ تا تعمه آرامش و نظم رو بچشه. زیر لب تکرار کرد. دور دنیا؟ آقای فاق گفت سفر به دور دنیا تو هشتاد روز نباید وقت رو تلف کنیم لازم نیست چمدون ببریم فقط یه ساک کوچک و دو تا پیرهن پشمی و سه جفت جورا بردار بقیه چیزها رو تو راحت می میکنیم راستی کفش راحتی به پوش البته فکر نکنم پیاده روی کنیم پس بار سرشو پایین با و افسرده از اتاق بیرون رفت زیر لب با خودش میزد. زد. آه، من خوش خیاره بگو که دنبال آرامش بودم. پاسپارتو ساکا رو بست تمام مدت با خودش فکر میکرد و کلنجار میرفت. سفر دور دنیا اونم فقط در هشتاد روز خدایا دیوانگی بود. اما آقای فاک تصمیمش رو گرفته بود. نمیشد نظرش عوض کرد. البته پاسپارتو ته دلش خیلی هم ناراضی نبود. بعد از پنج سال دوری از پاریس بدش نمیومد سری سریع به شهرش بزنه. پاسپارتو گیج و سردرگم با ساکا از اتاق بیرون آمد. فیلی از فاک هم آماده شده بود. نقشه قاره ها، برنامه ها و کشتی ها رو هم برداشته بود. تا چشمش به پاسپارتو افتاد ساک رو گرفت و چند تا بست پول گذاشت توش. بعد ساکو داد دستش و گفت مراقبش باشید بیست هزار پوند پول توی ساکه در سپاسپارتو شل شد انگار به جای اسکناس بیست هزار پند شمش طلا توی ساک بود خودش رو زود جمع و جور کرد و همراه فاک از خونه بیرون رفت ارباب و خدمتکار در و کردن سوار دورشکه شدن فیلیاس فاک برای آخرین بار پرسید چیزی رو فراموش نکردی نقربان مطمئن باشین فیلیاس فاک ب پاسپارتو به ایستگاه راهن رفتن حدود ساعت هشت و 20 دقیقه رسیدن ایستگاه و از درشكه پیاده شدن آقای فاک بی معطلی راه افتاد تا سوار قطار شه دلش نمیخواست یک دقیقه هم از دست بره دوستاش برای بدرق به ایسگاه قطار آمده بودن آقای افاق بهشون گفت سفرم از همین الان شروع شده وقتی برگشتم مهر ویزاهای کشورها رو نشونتون میدم میخوام مطمئن این دروغ نمیگم آقای رالف گفت لازم نیست ما بهتون اعتماد داریم آقای افاق گفت ولی اینجوری بهتره من رأس ساعت هشت و چهل و پنج دقیقه بیست و یکم دسامر برمیگردم آقای فاگ و پاسپارتو سوار قطار شدم. ساعت هشت و چهل و چهار دقیقه بود. روی صندلیاشو نشستم. پاسپارتو از پنجره بیرون رو نگاه کرد. آسمان گرفته بود و بارون می اومد. باران به شیشه میخورد خورد. همون موقع قطار سوت بلندی کشید و راه افتاد. صدای سوت قطار با صدای فریاد پاسپارتو یکی شد. آقا، من فراموش کردم چراغ گازی اتاقم رو خاموش کنم آقای پاک گفت، خب به حساب خود شما میسوزه سوزه پاسبرتو ساکت شد پول هشتاد روز چراغ گازی خیلی زیاد میشد اما چاری نبود دیگه دیر شده بود خدمتکار جوان دوباره به بیرون زد و به صدای چرخهای قطار داد حرکت چرخهای قطار حس عجیبی رو تو وجودش بیدار میکرد صدایی که نوید سفری باور نکردنی رو میداد چند روز بعد ماجرای قرار فاگ تو کل لندن پیچید خیلی زود ماجرا از لندن پاش و بیرون گذاشت و کل انگلیس جریان رو فهمیدن خبر سفر آقای فاگ تیتر اول روزنامه ها شده بود مردم با کنجکاوی اخبار رو دنبال میکردن. بیشتر روزنامه ها مخالف آقای فاک بودند و چند دوچون سفرش رو تحلیل می‌کردند. مردم امیدی به برنده شدنش نداشتند می‌گفتند قرار رو میوازه و ورشکسته میشه. ماجرا به قدری جدی شده بود که اسم ویلیاسفاک به جمع های شرط بندی و بازار بورس هم راه پیدا کرد و در عرض چند روز تمام سهامش فروش رفت. البته خیلی هم زود ارزشش رو از دست و سقوط کرد. مردم دست سه دست ساهم بی ارزششون تا بیشتر زرر نکنن. تنها کسی که نبود ساهمش رو بفروشه پیرمرد مرد ساله معلولی بود. پیر مردی که رویای سفر دور دنیا رو داشت و معتقد بود ارزشش رو دار سرمایش رو به پای فاگ هدر بده. شرایط خیلی زود تغییر کرد خبر جدیدی مردم انگلیس را بحت زده کرد هفت روز بعد از شروع سفر آقای فاک تلگراف عجیبی دست به دست شرخی. یکی از کاراگاهان معروف لندن تلگراف زده بود قیلیاسباک سارق بانک رو تحت نظر گرفتم لطوا هرچه زودتر حکم جلوش رو به بنبیی هند حواله کنید ااگاهفیکس پخش شدن تلگراف همه چی زیر و رو شد تصویر متشخص و محترم فیلیاسفاگ از بین رفت پلیس مشخصات فاگ رو با سارق بانک تطبیق داد خیلی از مشخصات هماهنگ بود زندگی رمزآلود فیلیاسفاگ مامای خاصی پیدا کرده بود شاید سفر به دور دنیا بهانه خوبی برای فرار بود کاراگاه فیکس در مز روی اسکله کانال سوئز منتظر کشیه مگنولیا بود کاراگاه مأمور شده بود سارق بانک رو دستگیر کنه و حالا مطمئن بود سارق تو چنگشه فقط باید زیر نظر میگرفتش تا حکم جلبش برسه کاراگاه آرام و قرار نداشت روی اسکله قدم میزد و گهگاه به ساعتش نگاه میکرد کنارش مردی از کنسولگری انگلیس ایستاده بود کاراگاه پرسید مطمئن کشتی به موقع میرسه؟ مرد در جواب گفت کشتی مگنولیا هیچ وقت تأخیر نداشته همیشه جایزه صرف در زمان رو میبره کاراگاه فیکس از جایزهای تعین شده برای دستگیری سارق هیجان زده شده بود هر جوری شده باید سارق رو میگرفت دلش نمیخواست همچین لغمه چرب و نرمی رو از دست بده پیدا کردن دوزا شامه قوی میخواست و کاراگاه به شامه تیزش زیادی ایمان داشت همیشه میگفت دوزای حرفهی خودشون مخترم جا میزنن تا شناخته نشن فکر میکرد فیلیس فاکم هم از همین قماشه دوزی که تظاهر میکنه مخترمه تا مردم رو گول بزنه و پولاشون به دوسته. کاراگا دور برشو نگاه کرد اسکله شلوغ شده بود صدای مرغای دریایی کلافش می همون موقع کشی دید کشتی به اسکله نزدیک شد کاراگا فیکس از بین جمعیت راهیش باز کرد و به کشی زل زد از اینکه کشی هنوز به اسکله نرسیده بود کفری بود. وقتی ساعت بندر زنگ ساعت دهانی موزد، طاقتش تا تاق شد و مثل فنر از جا پرید. پس چرا کشی انوزن ایم بده؟ معمور کنسولگری با خونسردی گفت، نظری که تا چند دقیقه دیگه میرسه. اگه از دستم در بره، راحت توهن پنهون میشه و دیگه دستم بهش نمیرسه. نگران نباشین، پنهان شدن تو خاک انگلیس راحت تر از پنهان شدن تو کشورهای است. کاراگا پیکس رفت و فکر حرفای معمور کنسولگری ذهنش به هم ریخت به دفترش رفت با خودش گفت فاک خیلی زرنگه هندو انتخاب کرده چون زیر نظر گرفتنش سختره حرف معمور کنسولگری رو جدی بگیرم همون موقع صدای ممتد بوق کشتی بلند شد کاراگا از دفترش بیرون آمد و رفت روی اسکلیت جمعیت به طرف اسکله هجوم برد. کشتی پر از مسافر آروم آروم به اسکله نزدیک شد. بعضی از مسافرها روی عرشه ساده بودن تا سوئز راخو تماشا کنند. بعضی هم از کشتی پیاده شدند. کاراگاه مسافرخا رو زیر نظر گرفت. مرد جوونی از بین جمعیت به زحمت راه و باز کرد و آمد به طرفش. مرد جوان نزدیک شد و ادرس کنسولگری رو پرسید گزرنامه یم نشونه کاراگاه داد نگاه کاراگاه فیکس روی مشخصات گذرنامه ثابت موند و دستاش لرسید گذرنامه متعلق به فیلیاس فاک بود تمام تلاششو رو کرد تا خیجانش رو پنهون کنه گذرنامه خودتونه؟ نه قربان مال اربابمه میخواد تو گذرنامهش مهر ویزا بزنه ولی برای شناسایی و تطبیق هویت باید خودشون برن کنسولگری. کنسولگری 200 متر جلوتره. کاراگاه پیک ساختمان کنسولگری رو با دست نشون داد. مرد جوان گذرنامه رو جیبش گذاشت و گفت: اه، اه، پس برم به اربابم خبر بدم. متشکرم." مرد لابلای جمعیت گم شد. کاراگاه با چشمان تیزبینش دور شدنش رو تماشا می کرد بهترین فرصت بود تا فاگ رو از نزدیک ببینه برای همین تندی خودشو به کنسولگری رسوند و به معمور کنسولگری خبر داد کاراگافیکس ماجرای گذرنامه رو تعریف کرد معمور کنسولگری هیجان زده شده بود دلش میخواست زودتر متهم رو ببینه اما به نظرش منطقی نبود خلافکارا که دنبال مهر ویزا نیستند اما کاراگا مس مامور فکر نمیکرد یقین داشت خرافکارهای زیرک تو گذرنامه مهر ویزا میزنن تا همه چیز رو قانونی جلوه بدن برای همین از معمور کنسولگری خواهش کرد به فیلیاسفاک ویزا نده. معمور کنسولگری اول موافقت کرد اما هرچه فکر کرد دلیل و مدرکی برای ندادن ویزا پیدا نکرد کارگافکس نفس عمیقی کشید باید فکر دیگه ای میکرد. شاید باید آقای فاگ را تو سوئز نگه می داشت همون موقع فیلیاس و پاسپارتو وارد کنسولگری شدن فیلیاس با اطمینان گزرنامش را تحویل داد تا مهر بزنن کاراقا آرام و بی صدا گوشه بود و براندازشون می کرد کنسولگری مدارک آقای فاگ را خوب بررسی کرد ایرادی نداشت بعد هم مثل همیشه یه سری سوال پرسید احل کجایید به کجا سفر میکنید و هدفتون از سفر چیه؟ آقای فاگ با خونسردی سردی و ادب به تمام سوالا جواب داد. معمور کنسولگری لبخندی زد و گذرنامه نامه رو مورکد. فیلیاز فاک و خدمتکارش خوشک و رسمی خداحافظی کردند. کاراگافیکس از معمور کنسولگری پرسید مشخصاتش به مشخصات سارق نمیخوره؟ مرد جواب داد قبول دارم. اما تمام مشخصاتش کارگا فیکس پرید وسط حرفش. تحتوی غضیه رو در میارم. فرانسویه، فرانسویا فرغانسویه. فرغانسویه آدم دهن فیکس کلاهش رو به نشونی احترام برداشت و خداحافظی کرد. نباید وقت تو طلب می کرد. هر طور شده باید از ماجره سر در می آورد. برای همین دنبال پاسپورتو و دوید و از کنسولگری بیرون اومد آقای فاک خودشو به اسکله رسوند و با قایق سواره مگنولیا شد. وقتی به کابینش رسید دفترشو برداشت و برنامه سفرش رو داشت کرد. از زمان شروع سفر ساعتهای دقیق ورود و خروج از هر شهری رو یادداشت می‌کرد تا متوجه چقدر از برنامه سفر جلو یا عقبه. خوشبختانه تا الان برنامه خوب پیش می‌رفت. وقتی حساب کتابش را انجام داد، دستور داد، نهارش رو بیارم برنامه برای دیدن شهر نداشت. تمام برنامه های داخل شهر رو به پاسفارت و کرده بود. روی اسکله، خبرهای دیگه هم در جریان بود. وقتی کاراگافیکس به اسکله رسید، دوربرش رو با دقت نگاه کرد که خدمتکار فرانسوی رو پیدا کنه. پاسپارتو تو اسکلی ایستاده بود و شهر رو تماشا میکرد. کارگال لبخند پیروز ای زد و رفت نزدیکش دستش رو روی شونه گذاشت. دوست عزیزم، بالاخره ویزا رفتی؟ پاسپارتو شگفت زده جواب داد. شمایی؟ بله گرفتیم. مشغول گردش و تماشایی؟ بله. اه. اما سرعت سفرمون خیلی زیاده. وقت نمیکنیم خیلی بگردیم. الان تو سوئزین؟ تو مصر درسته؟ بله. تو با های جان جواب داد. باورم نمیشه. فکر نمی کردم یه روز پامو از پاریس بذارم بیرون. اما حالا تو مصرم. تو آفریقا. یه ساعته از پاریس رد شدیم. کل پاریسو از پنجره درشکه دیدم. پس خیلی عجله دارین ها؟ ارباب داره راسی باید چند تو جوراب و پیرهم بخرم آخه فقط با یه ساک دستی اومدیم باورتون میشه؟ این همه را با یه ساک کوچیک. جالبه تا بازار همراهیتون میکنم کارگافیکس شونه به شونه پاسپارتو را افتاد تو راه تلاش کرد اطلاعات جمع کنه پاسپارتو راحتو راحت و بیخیال همه چی رو درباره سفر عجیبشون برای او توضیح داد. حتی از پولایی که عربابش خرج سفرشونم میکرد گفت. حرفای پاسفارتو تو ذهن کاراگاه مثل تکه های پازل به هم چفت شدن. کاراگاه فیکس کم کم یقین پیدا کرد آقای فاک همان دزد بانک. جمله آخر پاسفارتو تیر خلاص رو زد قرار گذاشته دور دنیا رو تو هشتاد روز بگرده من که باورم نمیشه موضوع فقط سفر باشه به نظرم عاقلانه نیست آدمی مثل ارباب من بخواد با این عجله بره سفر حس میکنم کاسه ای زیر نیم کازه است شفه پازل کاراگاه کامل شد فکر میکرد به قصد و نیت کثیف آقای فاگ پی برده فکر میکرد فیلیس فاگ بعد از دزی از بانک سفر دور دنیا رو بهانه کرده و از لندن فرار کرده پولی رم که از بانک دزیده برای رسیدن به مکانی دور افتاده خرج میکنه اما اطلاعاتش کافی نبود باید بیشتر با شخصیت فاگ آشنا میشد برای همین از خصوصیات آقای فاگ سوال کرد پاسپارتو مختصر و مفید گفت اربابم خیلی کم حرفه البته آدم محترم و ثروتمندیه اما کسی نمی‌دونه ثروتش از کجا آورده کاراگافیک جوابی که دنبالش بود رو گرفت اونقدر غرق فکر دستگیری فاک شد که حرفای پاسپارتو درباره چراغ گازی رو نشنید با خودش گفت باید زودتر کاری کنم معتره به لندن تلگراف بزنم کاراگاه با عجله از پاسپارتو خودحافظی کرد و خودشو به کنسولگری رسوند رو به روی مأمور کنسولگری ایستاد و نفسزنان گفت شک ندارم خودشه خودشو جای که دیگه جا زده سفر دور دنیا رو بهانه کرده تا رد گم کنه کاراگاه هرچی از پاسپارتو شنیده بود برای مأمور کنسولگری تعریف کرد مأمور گفت پس خیلی زرنگه چرا دنبال مهر ویزاست؟ بدون محرم میتونه سفر کنه نمیدونم ولی باید حکم جلبشو از انگلیس بخوام بعد تا بمبایی هن تقریبش کنم فکر کنم همونجا بگیرمش کاراگاه خیلی وقت نداشت کلایشو سرش گذاشت و با عجله به تلگراف رفت تلگرافی به لندن زد و موضوع رو گفت تلگراف کاراگاه کل انگلیس رو زده کرد سهام آقای فاک با سر سقوط کرد و اعتبارش از بین رفت کاراگاه بعد از ارسال تلگراف سوار کشی مگنولیا شد تا سارق بانک رو سایه به سایه تغییب کنه کشی بزرگ مگنولیا دریای سرخ رو می شکافت و پیش می رفت دریا متلاطم بود و گاهی روی خشنشو شو به مسافرای ثروتمند نشان میداد. این جور وقت‌ها عرشه خلوت میشد و فرنده پر نمیزد. همه تو کابیناشون مونده بودند تا دریا آرام شه اما آقای فاگ نگران های دریای صبح نبود مثل همیشه تودار بود و خونسرد بیشتر وقتش رو تو کابینش میگذروند و خیلی کم روی ارشه میرفت. هم خوبی پیدا کرده بود. پاسپارتو هم اوقات خوشی رو میگذروند. هر روز مثل اربابش خوب غذا میخورد و بعضی اوقاتم میرفت روی عرشه و به دریای سرخ نگاه میکرد. یه بار که محب تماشای دریای سرخ بود، کارگافیکس، در گوشه ارشه اونو دید و رفت نزدیکش اه شما همونه نیستین که تو سوئز کمکم کردین؟ عجیبه که شما رو روی مگنولیا میبینم شما مسافر بنبعی هستین؟ سرش سرشو به نشانه تأیید خم کرد و لبخند زد بعد با خوشحالی دست پاسپارت رو فشرد و تصمیم گرفت بهش نزدیک بشه گاهی دعوتش میکرد به کافه کشتی و ازش اطلاعات میگرفت. پاسفار تو هم که دلش نمیخواست منتی سرش باشه لطفا هم سفر جدیدش رو با گفتن جزیات سفر جبران میکرد. کشتی ماگنولیا 13 اکتبر وارد اویان سهند شد. برای سوخگیری چهار ساعت کنار بندر عدن پهلو گرفت. تو این مدت آقای فاگ و پاسپارتو پیاده شدن تا گذرنامه رو مهر کنند. پاسپارتو از مناظر زیبای عدن خوشش شماده بود به نظر سفر کردن به سرزمین های شرقی چیزهای جدیدی یادش میداد. علاوه از اینکه هم سفری مثل فیکس پیدا کرده بود. خیلی خوشحال بود. کاراگاه هم صحبت خوبی بود. و حسابی از تنهایی در شورده بود برنامه سفر هم خوب پیش میرفت از بندر عددن تا بمبعی نه روز فاصله بود اما کشتی به لطف پاداشی که آقای فاک به کاپیتانش داده بود هفت روزه رسید وقتی کشتی به بندر بنبعی نزدیک میشد آقای فاک رو هر ای ساد و دفتر سفرش رو عجیب در طبق برنامه دو روز جلو بود. پس دو روز زمان ذخیره شده داشت. یادداشت داشت کرد. فاکسرشو با رضایت تکان داد. برنامه هشتاد روز دور دنیا خوب پیش میرفت ورود انگلیسی ها به هند تأثیر زیادی رو این کشور گذاشته بود. خیلی چیزها عوض شده بود. حتی بعضی آداب و رسوم هندیه ها هم تغییر کرده بود. ورود کشتی های بخار از رود سند و گنگ زندگیش را تغییر داده بود. تا تمام شهرهای هند خط آهن داشتند. راه آهن شپ جزیره هند از بمبهی حرکت می کرد و از شهرهای هند می تا به کلکت می رفت. قرار بود مسافرای کشتی مگنوری هم سوار قطار کلکتش شن. ساعت چهار و نیم از کشتی کنار بندر بمبین پهلو گرفت و مسافر از کشتی پیاده شدم. قطار کلکته رأس ساعت هشت حرکت میکرد. آقای فاگ به خدمتکارش دستورای سورای مهم میروداد و گوشتد کرد رأس ساعت هشت تو راه هم باشه. بعدم با قدم های مطمئن و دقیق راهی اداره گذرنامه شد. وقتی گذرنامش رو موقع کرد یه راست رفت ایسکاه راخان و شامشو سفارش داد. آقای پاگ علاقه ای به دیدن بمبعی نداشت. وقتی غذاش تموم شد تو ایسکان و منتظرمون تا ساعت هشه. کارگافیک چند ثانیه بعد از آقای فاگ از کشتی پیاده شد. با عجله خودش رو به داره پلیس بنبعی رسوند و ماجرا رو برای رئیس پلیس تعریف کرد اما چون حکم جلب نرسیده بود نمیتونست کاری کنه سرعت آقای فاک از حکم جلبش بیشتر بود نرسیدن حکم جلب کارگاه فیکس رو پریشون کرده بود ولی راهی جز سعب کردن نداشت باید منتظر میمون تا حکم برسه. خوشفختانه طبقه گفتهای پاسفارتو آقای فاک چند روزی تو بمبهی موندگار بود. برای همین کارگاه وقت کافی برای رسیدن حکم جلب داشت. پاسفارتو خیال میکرد سفر دور دنیا جدی نیست. برای همین به کارگاه فیکس گفته بود چند روز تو بمبهی میمونن و شهر رو میبینن. اما برنامه تغییر کرده بود وقتی اربابش گفت ساعت هشت و ایستگاه راهن حاضر باشه انگار آب صبر رو سرش ریخته باشن فهمید اربابش اراده کرده زودتر دور دنیا رو بگرده و شرط رو ببره اربابش واقعا میخواست حرفش رو ثابت کنه پاسپاتو دوست نداشت وقت تلف کنه چهار ساعت فرصت داشت تا هند رو ببینه بعد از خرید جوراب و چندتا تا پیراهن، نوبت گشت و گذار تو کشور هفتاد و بود. پاسپارتو راه افتاد. خیابونا پر از جمعیت بود. مردم از نژادهای مختلف کنارش راه می رفتن. از پارسی و زرتشتی گرفته تا ارامنه و هندو. پاسپارتو، مربابش روز جشن زرتشتیها به هند رسیده بودن. شهر پر از کارناوال بود. پاسپارتو با چشمای متعجب جش را تماشا میکرد، کرد. نوازنده از کنارش رد می شدن و شادی می کنجکاوی کنچکاوی پاسپارتو به همینجا ختم نشد. وقتی تماشای کارنوال تمام شد راه افتاد تا به موقع به قطار برسه. تو راه چشمش به معبد زیبای ملاوارهی افتاد. معبدی بزرگ و با شکوه که انگار از دل داستانهای هزار و یک شب بیرون اومده بود پاسپارتو وصفصه شد نگاهی به داخل معبد بندازه اما از رسومات معبد بیخبر بود نمی‌دونست کسی حق نداره با کفش وارد معبد بشه برای همین با کفش وارد شد حکومت انگلیس هم به دلایل سیاسی فرد خاطی رو تنبیه می کرد پاسپارتو که از قانون خبر نداشت با کفش رفت و محبت پاسپارتو محب نقاشی ها و اشیای قیمتی محبت شده بود که یه دفعه کل پا شد و پخش زمین شد چند تا نگهبان گردن کلوف به زور کفش و جوراواش و از پاشتر آوردند و به زبان هندی سرش داد زدن. پاسپارتو هر کاری کرد نتونست رو به نگهبانان برسونه. برای همین کتک مفصلی خورد وقتی به خودش اومد که زیر دست و پای نگهبانا له شده بود. یهو یاد قدرت و زور و بازو افتاد تو یه حرکت مشت محکمی حوالی یکی از نگهبان کرد. نگهبان نقش زمین شد. به نگهبان بعدی هم لگدی زد و با پای برخنه از معبد فرار کرد. ساعت پنج دقیقه به هشت با سرووزی آشفته به ایسکار سید. تورا خریدا و کلاهشم گم کرده بود. سنت دیگه سکو کاراگافیکس با چشمان تیزبینش شیست بود کاراگاه فاق رو تعقیب کرده بود فهمیده بود تو بمبعی نمی مونن. واسه همین دماغ و آویزون خودشو به ایسگاه رسنده بود اما کاراگاه به این راحت یا تصمیم نمیشد. تصمیم گرفته بود تا کلکت تعقیبشون کنه و مجرم رو به لندن برگرد پاسپورتو بدون کلاه با پاهای برهنه بربابش نزدیک شد خدمتکار وفادار ماجرای معبد رو مو به مو تعریف کرد آقای فاک با خون سردی همیشگی جواب داد امیدوارم دوبارم چین مشکلی براتون پیش نیاد بعد هم پله های قطار رو بالا رفت پاسپورتو با سرافکندگی پشت سر اربابش را افتاد کارگافیکس از پله اول بالا رفت همون موقع فکری به ذهنش رسید. با خودش گفت کف... همینجا میمونم. حالا که تو خاک هند مرتکب جرم شدن، دیگه تو مشتم. کارگاه از قطار پیاده شد و چند قدم عقب رفت. قطار سوت بلندی کشید و در دل تاریکی شب ناپدید شد. آسفارتو پکر رو گرفته کنار اربابش نشسته بود. روبروشون مردی به اسم فرانسیس کرومارتی نشسته بود. مرد کتابی دستش بود و غرق خواندن بود. سرتیب کرومارتی یکی از همبازی های آقای فاک تو کشتی بود. مردی حدودم پنجاه ساله و شیک بوش. کرمارتی سالها بود که تو هند زندگی می کرد. به تمام آداب و رسوم هند آشنا بود دلش میخواست آقای فاک از اطلاعاتش استفاده کنه اما آقای فاک یه بار هم چیزی ازش نپرسیده بود فاگ جدی و منظم فکر و ذکرش فقط محور صاف و مستقیم کره زمین بود دلش میخواست مو به مو برنامه سفر هشتاز روزش رو اجرا کنه. برای همین مدام همه چیز رو یادداشت می میکرد و دست از حساب و کتاب بر نمی آقای فاگ ماجرای سفر هشتاز روزش را از سرتیب کرومارتی پنهان نکرده بود. گاهی در مورد سفر حرف می اما خیلی وارد جزئیات نمی شد. سرتیب کرومارتی بالاخره تصمیم گرفت پیشتر حرف بزنه. و بحث رو کش بده برای همین گفت اگر چند سال پیش تصمیم میگرفتید دور دنیا سفر کنید امکان نداشت سر وقت برسین لندن سفرتون اونقدر تأخیر داشت که برنامهتون خراب میشد همین چند سال پیش خطاهن هند کامل نبود واسه همین مجبور بودین تمام مسیر رو با تخت روان برین آقای فاگ در جوابش گفت احتمالا باید پیشبینی می کردم و به جای هشتاد روز زمان بیشتری در نظر می گرفتم. سرتیب گفت برحال ممکنه به خاطر ماجراجویی خدمتکارتون تو معبد گرفتار شیم. پاهاش پاهاشو توی پتوی سفریش پیچیده بود و پفش سالن قطار رو پر کرده بود. سرتیب کرومارتی نگاهی به پاسپارتو کرد و گفت حکومت انگلیس برای همچین جرمایی زیادی سخت میگیره حکومت انتظار داره به آداب و رسوم هندوها احترام بذاریم اگه خدمتکارتون گیر میافتاد، آقای فگ گفت اگه گیر میافتاد محکوم میشد و دوران محکومیتشو میگذروند بعد هم با خیال راحت برمیگشت اروپا پس نمیتونست باعث تأخیر اربابش بشه سرتیب کرومارتی از پنجره بیرون رو نگاه کرد. قطار از کنار شهرها و مزرعه سرسبز سرسبس می از دکد کوچک رد میشد و با سرعت به سمت ایستگاه بد پیش میرفت. پاسپورتو از خواب بیدار شد و از پنجره بیرون نگاه کرد باورش نمی‌شد سوار قطار و ازهین میکسره. همه چی براش مثل رویا بود. قطار از کنار چند شهر دیگر هم گذشت و تو ایستگاه برهامپور نگه داشت. پاسپارتو از قطار پیاده شد و برای خودش یه جفت کفش سنتی خرید. کفش زیبا که روش مربارید تقلبی دوخته بودن. بعد از حرف نهار دوباره سواره قطار شدم. پاسپارتو کنار اربابش نشسته بود و فکر میکرد. یاده ماجرا جویییاش افتاده بود از سفری که شروع کرده بود راضی بود از وقتی فهمیده بود قرار اربابش این کار بزرگ و انجام بده نگران شده بود حتی از اربابشهم نگرانتر بود وقتی قطار تو ایستگاهی معطل میکرد خون خونشو میخورد مدام خودشو سر ماجرای معبد سرزنش میکرد اگه گیر میافتاد و برای اربابش درد سر درست می کرد تا عبد خودش رو نمیبخشید. بخشید پاسپارتو با انگشتای دستش روزایی که گذاشته بود و حساب کرد سعی کرد احتمالات و تاخیره رو در نظر بگیره انگار خودشم از شرط بندی چیزی آیدش نیشد. شد اوایل شب سرتیب ساعت رو پرسید پاسپارتو به ساعتش نگاه کرد ساعت سه صبح رو نشون میداد پاسپارتو با تعجب گفت مگه میشه الان سه صبح باشه؟ سرتیب توضیح داد ساعتش به وقت لندنه ما باید ساعتش رو تو هر شهر تغییر بده پاسپارتو دست به ساعتش نزد چون کاری به خورشید و گردش زمین نداشت براش مهم نبود هر چند کیلومتر به سمت شهر چهار دقیقه ساعتش رو باید بکشه جلو. ترجیح داد مسیر رو با ساعت لندن حساب کنه. البته کارش به کسی هم نمیزد. ساعت اشت نیم قطار وسط جنگل تمرهندی سات پاسپورتو به آقای فاگ و سرتیب نگاه کرد. کسی نمیدونست ماجرا چه قراره. و نگران زمانبندی سفر بود. از کوپه بیرون رفت. تا توی ماجره رو در بیاره. چند دقیقه بعد با صورت برفروخته برگشت. خطاهن تموم شده. همون موقع معمور قطار وارد کوپه شد و گفت آقایون باید از قطار پیاده سرطی پرسید یا نیچی. روزنامه ها نوشتن خطاهن بمبایی به کلکت کامل ساخته شده. معمور گفت فقط؟ از این ایستگاه تا ایستگاه بعدی ساخته نشده. قطار تا کلکته میره اما باید حد فاصله دو ایستگاه رو با دیگه ای برید. روزاما ما دوست دارن همه چیز رو جلو جلو بنویسن. پاسپارتو حصابانی بود. در کمال تعجب قیافه اربابش تغییری نکرده بود. آقای فاگ با خونسردی از جاش شد. مسئله نیست. من دو روز از برنامه جلوترم بعد کلاهشو سرش گذاشت و از کوپه بیرون رفت پاسفارتو و سرتی هم سرش را افتادند. بقیه مسافرا ها زودتر از قطار پیاده شده بودن و برای ادامه را وسیله نقلیه پیدا کرده بودن آقای فاک دو رو نگاه کرد و گفت من پیاده میرم پاسفارتو با ناامیدی به کفشای نویش نگاه کرد کفشاش به درد پیاد روی نمیخوردن. برای همین زود دست کار شد تا هر طور شده چیزی پیدا کنه با اجل رفت روستا و چند دقیقه بعد با قیافه خندان برگشت آقا وسیله پیدا کردم آقای خون خونسرد و آرام پرسید چی هست؟ فیل! مال یکی از رستایی هست. خب برین فیلو ببینیم <تصفيق> پنج دقیقت سرتیب و آقای فاک روبروی فیل بزرگی ساده بودند صاحب فیلم مرد هندویی بود که تو کلویی وسط جنگل زندگی می کرد مرد فیلا رو برای مبارسه تعلیم میداد. خصوصیات طبیعی و آرامش رو می گرفت و با خشم و عصبانیت اونارو رو پرورش میداد. خوشبوقتا مدت زیادی از آموزش فیلی که پاسپورتو پیدا کرده بود نمیگذشت. فیل بزرگ مثل همه فیل ها تند راه میرفت و مسافت های رو بدون خستگی طی آقای فاک چند دقیقه سبک سنگین کرد. دست آخر رضایت داد سوارشه. اول پیشنهاد کرد فیر رو اجاره کنن. اما صاحب قبول نکرد. فیلای نر و هندوستان خیلی مورد توجه بودند. وقتی هم اهلی می شدن دیگه جوفگیری نمی کردند. برای همین شکارشون می کردن. فیلی هم که انتخاب کرده بودن نر بود. اگر اهلی می شد از ارزشش کم میشد و شکارش می کردن. صاحبش حاضر نبود همچین ریسکی کنه. آقای فاک پیشنهاد کرد فیر رو بخره مرد هندی دوباره مخالفت کردم ما معلوم بود بدش نمیاد فیلیشو رو بفروشه و پول خوبی به جیب بزنه. فقط چون بوی پول زیاد به دماغش خورده بود به کم راضی نمیشد. فیلیاس فاک قیمت رو بالاتر بود هرچه قیمت بالاتر میرفت رنگ پاسپتو می می‌شد مطمئن بود فیل اونقدر ها که میگن نمیارزه صاحب فیل ملخر با قیمت 2000 پوند راضی شد حالا تنها چیزی که نیاز داشتن راهنما بود همون موقع یک مرد پارسی جلو آمد و خودش معرفی کرد آقای پاک سر تا پای پسر رو نگاه کرد به نظر پسر باهوشی میآمد برای همین قبول کرد راهنماشون شه بهش قله دستموزه خوب هم داد آقای فاگ اهل وقت طرف کردن نبود برای همین زود سوار فیل شد و دستور داد بقیه هم سوار شند. آقای فاگ و سرتیب توی کجاوه نشستند پاسفارتو هم پشت فیل نشست راهنمای جوان چلون نشست و به طرف ایستگاه بعد را افتاد از راه جنگل چند کیلومتر نزدیکتر می‌شد برای همین راهنمای پارسی راهی جنگل رو پیش گرفت. معلوم بود راه و کور راه ها رو مثل کف دستش برده. حدود یک ساعت تو دل جنگر پیش رفتند. کجاوه ها تکونهای وحشتناکی میخوردند. آقای فاگ به پاسپارت دستور داده بود تا وقتی برسند حرف نزنه. پاسپارت توی متی هم از سرس به خودش میپیچید و صداش در نبی اومد. راهنما برای کم شدن ترس مسافرها بهاشون شوخی میکرد و روی فیل حرکات آکروباتیک انجام میداد چند کیلومتری راه رفته بودن که راهنما دستور توقف افتاد وقتش بود فیل نفسی تازه کنه به دستور راهنما همه از فیل پیاده شدن. پس مشغول درست کردن نهار شد آقای پاک به نظر سر حال می اومد. سرتیب هم به خاطر تکن فیل از توقف استقبال کرد. فیل از برکی که نزدیکشون بود آب خورد وقتی تشنگیش رفت شد بی صدا و آرام رفت طرف درختا تا شکمشو سیر کنه. بعد از یکی دو ساعت استراحت راهنما دوباره از حرکت داد. چند ساعت بعد دیگه خبری از جنگل سرسبز نبود. زمین خشک بود و درخت‌های های بی جون زیر آفتاب نفس نفس می زدن. مردم بومی منطقه که هندوهای متاسبی بودن به فاک و همراه ها چپ چپ نگاه می راهنما با مهارت از آهالی منطقه دوری می‌کرد و با فاصله. حرکت میکرد بین را خبری از حیوان و درخت نبود مسیر خشک و برهوت بود فقط چندتا میمون سر راهشون سبز شد و پاسپارتو رو خندوندن پاسپارتو تمام مدت به عاقبت فیل فکر میکرد به اینکه وقتی رسیدن با فیل چکار کنن یعنی ممکن بود در فیل و بش ببخشه اگر فیل و بهش میداد، اون از سایه جان قش می کرد. فیل تا غروب پیش رفت. ساعت هشت شب بود. هوا سر شده بود و باد سردی تقریبا نصف راه اومده بودن و چهل کیلومتر دیگه با ایسکا فاصله داشتن. فیل خسته شده بود. باید توقف می و صبح دوباره را میافتادن. راهنما خیلی راحت جایی برای سراحت پیدا کرد فیل جلوی کلبهی قدیمی ایستاد مسافرا از فیل پیاده شدم راهنما زود آتیش روشن کرد مسافرای خسته دور آتیش نشستن و خودشون رو گرم کردند. آقای پاک و همراهاش تا گرم شدن خوابشون گرفت و خورناسشون جنگل رو پر کرد اما راهنما تا صبح بیدار موند و مالای سر فیل کشیک کشید فیل هم به درخت ک داده و خوابش برد صدای پلنگا و یوز پلنگا از دل جنگل شنیده میشد، اما خبری از سمده نبود شب آرامی بود و مسافرها با خیال راحت تا صبح خوابیدن ساعت پنج صبح با طلوع خورشید همه از خواب بیدار شدن و صبحانه خوردن یه ساعت بعد سوار فیل شدن و دوباره را افتادن راهنما امیدوار بود تا بعد از ظهر به ایستگاه برسم دلش میخواست آقای فاک تو زمان جویی کنه و وقت بیشتری ذخیره کنه. برای همین با سرعت بیشتری حرکت کرد بین راه از رود گنگ گذشتند راهنما سعی میکرد به جاهای مسکونی نزدیک نشه ساعت دوی بعد از ظهر دوباره به قسمت جنگلی رسیدند نهارشونو خوردن و کمی استراحت کردن به نظر می مشکلی سر راهشون نیست و خیلی زود به مقصد می رسن. اما یه دفعه فیل نگران و آشفته سر جاش ایستاد از دور دست صدای ساز و آواز شنیده می شد از فیل پیاده شد تا سر و آب بده به بقیه گفت فیل رو پشت درق قایم کنن و خودشونم آفتابی نشم. دسته ای از روحانیون هندی که به برحمن تعلق داشتند با ساز و عواز نزدیک شدند فیل و مسافراش پشت درختا قایم شدند صفحه اول برحمن از پنجاه قدمی فیل گذشته و از معلوم بود مراسم مهمی انجام میدم همه کلاهی مخصوص سرشون بود و های بلندشونو بلندشون روی زمین می کشیدن و زنا و بچه ها میچرخیدن و آواز غمگینی می پشت سر جمعیت مجسمه عجیبی با چهار دست روی عربه. هر را به نزدیک و نزدیک تر شد سرتیب پروبارتی و راهنما خیلی زود مجسمه رو شناخت مجسمه علاقی مرگ و عشق بود هرچند از نظر پاسپارت و حیبت وحشتناک و عجیب مجسم شباهتی به علاقی عشق نداشت راهنما اشاره کرد ساکت باشن مرتاس دور دوره مجسمه مرگ میچرخیدن و از خود بیخود شده بودن خطوط قهوهی حنا روی تنشون خوش شده بود بدناشون زخمی بود و خون ازشون میچکید پشت سر مرتاسا دستهی برحمن خوشپوش با سر سرووزی مرتب زن نیمه بیهوشی را روی زمین میکشیدن زن جوان سفید پوست بود و شباهتی به هندی ها نداشت لباس سفید حریری تنش بود با تلا دوزی های زیبا لباس با شکوه زیبایی زن را چم برابر کرده بود بعد از زن نیمه بیهوش دسته نگهبان با قیافه های خشن و شمشیرهای آماده جنازه ای را به دوش می کشیدن گفت جنازه متعلق به راجه پیر یکی از حاکمان هنده سرتیب با ناراحتی مراسم را نگاه می میدونست پایان مراسم چه اتفاقی می به راهنما گفت زن بیچاره مراسم ساتیه مگه نه آقای فاک با کنشکاویی که ازش بعید بود در مورد مراسم ساتی سؤال کرد آقای کورمارتی گفت ساتی مراسم قربانی کردن انسانه اما قربانی کردن با اختیار زنی که دیدین فردا صبح توی آتش می سوزه. آقای فاگ پرسید جنازه چی؟ جنازه کی بود؟ جنازه شوهرشه شاهزاده ی یکی از مناطق وحشی هنده آقای فاک عصبانی شد طاقت چنین خشونتی نداشت به نظر حکومت انگلستان باید دخالت میکرد باید جریه همچین جنایاتی رو می گرفت. آقای فاک خبر نداشت کاری از دست کسی بر نمیاد بعضی از نقاط هند مستقل بودن و زیر بار مستعمر گری نمی رفتن سرتیب توضیح داد بیشتر مراسمان خود جوشه خود همسر راجع درخواست میکنه بعد از مرگ شوهرش قربانیش کنن براشون سوختن تو آتش بهتر از زنده موندنه اگه زنده بمونن موهاشون از سمی تراشن و تردشون می کسی بهشون غذا نمیده و تو تنهایی و فلاکت میمیرن. راهنما حرف سرتیب رو تایید کرد. چشماش ریز کرد و گفت اما این مراسم خودخاص نیست. فاک پرسید از کجا میدونین؟ راهنما گفت داستانش تو منطقه پیچیده. آقای فاک گفت اما زن بیچاره مقاومتی نشون نمیداد. راهنما در جواب گفت: "فله درسته چون با افیون و دود شاخطانه بی کردند. فردا هم زنده زنده اونو می‌سوزون." راهنما با ناراحتی از جاش بلند شد، فیلو از پشت درخت آورد بیرون و سوارش شد. همین که خاص را بیفته، آقای فاگ گفت: سب کن اگه نجاتش بدیم چی میشه؟ ببین ما دوازده ساعت از برنامه جلوییم به نظرت میتونیم برای اون زن کاری کنیم؟ خواسته آقای فاگ سخت و خطرناک بود. امکان داشت جونشو به خطر بیاندوسه. اما فاگ وقتی تصمیمی رو میگرفت کسی جلودارش نبود. شجاعت آقای فاگ سرتیب رو هم مجاب کرد تا هم روحیش کنه. پاسفار تو همه همیشه برای خدمت آماده بود. سرش درد میکرد برای ماجراجویی ارسه به راهنما زل زدن. فقط مونده بود راهنما نظرشو بگه. اگر طرفتار هندوها بود و جلوشون رو میگرفت کارشون ساخته بود. ولی اول باید مطمئن می شدن راهنما بی طرفه. سرتی پیش کرد و پرسید آقای راهنما نظر شما چیه؟ طرفتار هندوها هستین؟ راهنما گفت آقا من پارسی هم. وی راجم از نجاد پارسه من برای خدمت گذاری حاضرم اما باید بدونید با چه خطری روبرو هستیم. اگه اونا ما رو بگیرن شکنجمو میکنن ممکنه به طرز فجی ای ما رو بکشن پس خوب فکر کنید و تصمیم بگیرید آقای جواب داد بررسی شده فکر کنم باید تا شب صبر کنیم شب بهترین زمان برای نجات خانوم پارسیه راه با نظر آقای فاک موافق بود برای اینکه که کمکی کرده باشه و بقیه رو در جریان بذاره ماجرای زن رو براشون گفت اسم زن آودا بود و زیبایی زبان زد خاصا آودا از سبار پارسی و دختری یه تاجر ثروتمند هندی بود دختری که تو ناز و نعمت با اصول اشرافی بار آمده بود او داخلی زود پدرش را از دست داده بود و یتیم شده بود برای همین هم به اجبار با راجه پیر ازدواج کرده بود راجه سه ماه بعد از ازدواجشون از دنیا رفته بود هاودا که میدونست بعد از مرگ همسر چه سرنوشت شومی داره فرار کرده بود اما فرارش ناموفق بود زود اونو گیر آورده بودن قربانی شدنش بعد از مرگ شوهر و ننگ فرار به نفع خاندان راژه بود زن هر طور شده باید قربانی میشد. شد قصه دردناک آودای جوان فاگ و همراهاشو برای نجاتش مسمم تر کرد نباید وقت رو تلف می کردن. برای همین زود سوار سوارفی شدن و به طرف معبد پلجی جایی که آین قربانی انجام میشد راه افتادن نیم ساعت وزیر درختان این معبد قایم شدن و نقشه میکشیدن. تنها چیزی که ازش مطمئن بودن زمان حمله بود. نیم شب بهترین وقت بود. اگر شب را از دست می و آودا به قربانگاه می رفت دیگه کاری از دستشون بر نمی اومد. فقط دو راه داشتن. وقتی همه خوابن برن تو معبد و آودا را نجات بدن. یا دیوارو سوراخ کنند و وارد معبد بشن تا نیمه شب وقت زیادی داشتن گروه نجات تو سکوت شب زیر دهخت منتظر شدن وقتی هوا تاریک و ماه پشت ها پنهان شد تصمیم گرفتن اطراف رو شناسایی کنن آخرین آوازخان مراسم هم ساکت شد و صدای خورناسش سکوت شب رو شکوند اعضای مراسم مخلوط افیون و شانده شاهدان خورده بودن و خوابشون برده بود راهنما اشاره کرد عملیات شروع کنند همه پشت سر راهنما را افتادند کنار معبد تل بزرگی از هیزم آماده بود جنازه راجه بالای تل هیزوم بود مرد بیچاره تو خوابی عمیق و ابدیش فرو رفته بود و منتظر زن جوانش بود گروه نجات از کنار طل هیزم رد شدند و رفتند نزدیک معبد منطقه رو خوب زیر نظر گرفتن گروه مراسم ساتی مثل کشتهای جنگ روی زمین بلو شده بودند راهنما نزدیکتر رفت و ورودی معبد رو خوب نگاه کرد نگهبانای راجه هشیار با شمشیرهای تیزشون ایستاده بودن و که شک راهنما هستد زد روحانیونم تو معبد باید بیدار باشن. پس وارد شدم به معبد نشدنی بود. باید راه دوم رو امتحان می راهنما به گروه اشاره کرد عقب نشینی کنند و دوباره با هم مشفرت کنن. و روح نجات گوشهای مخفی شدن و خیلی آرام با هم صحبت میکردن. بلاخره به این نتیجه رسیدن تا نیم شب ثبت کنند فیلیاسفاگ و همراهاش زیر درختی دراز کشیدند و منتظر ماندند زمان به کندی میگذشت راهنما گاهی میرفت و موقعیت رو بررسی میکرد اما خبری نبود شب به نیمه رسید نگهبان ها هنوز سر پستشون بودن و با چشمهای تیزوین بین بر اون با این حساب روخ استگیه نگهبان ها حساب کنند. مجبور بودن برن سراغ راه دوم و دیوار را سوراخ کنم. گروه نجات آرام و بی سر و صدا پشت راهنما را افتادن. وقتی به دیوار پشتی معبد رسیدن با تعجب دیدن، خبری از در و پنجره نیست دیواری سخت و سیمانی رو سر راهشون دیدن ای نداشتن باید دیوار را سوراخ میکردند تنها ابزارشون چاقوی جیبی پاسپارتو بود راهنما به دیوار دست کشید و لبخند زد و اختیارشان بود دیوار معبد برخلاف ظاهرش از آجر و چوب ساخته شده بود وقتی اولین آجر رو برداشتن، بقیه آجرا هم به راحتی از هم جدا شدند پس و راهن خیلی آروم و بی سر و صدا مشغول جدا کردن آجرا شدند ناگهان صدای فریادی از داخل معبد میخ کوبشون کرد. گروه نجات کار و نیمه کاره رها کردند و فورا توی تاریکی شب پنهان شدند اونها سر و صدایی از داخل شنیدند. چند تا از نگهبانا دور زدن و نزدیک دیواغش دادند، نقشه دوم هم شکست خورده بود، گروه نجاب دست از پادره سر برگشتن زیر درختها و پناه گرفتند. سرتیب مشتش از عصبانیت گاز گرفت، پاسفارتو هم میخواست برگرده و به نگهبانا حمله کنه، اما راهنما به موقع جلوشو گرفت. آقای فاگ مثل همیشه خون سرد نشسته بود و دنبال راه سبم میگشت. معتقد بود شانس بالاخره در خونشونو میزنه و و نجات میدن. حرف آقای فاگ مثل آب رو آتیش همه رو آروم کرد. اما کسی نمیدونه چه شانسی. اصلا شانسی هم وجود داشت. آاسپتو رفت بالای شاخه درختی و دراست کشید. زیر لب قر میزد دیوونگیه. ولی شاید شدنی باشه شاید شانس به دادمون برسه. یهو یه فکری به ذهنش رسید اما چیزی نگفت آروم و بیصددا مثل مار از شاخه درخت خورد و پایین رفت. هوا گرگومیش بود. و چیزی به طلوع خورشید نمانده بود. وقت خربانی کردن فرا رسیده بود. اثر منگی شب قبل از سر میپرید و دونه دونه بیدار شدن. هم همه برپا بود و همه به تکاپو افتاده بودن. دوباره صدای ساز و آواز بلند شد و وقت مرگ فرا رسید. راجه پیر منتظر زن جوانش بود درهای معبد یکی کی باز شدن و نور کورکننده معبد بیرون رو روشن کرد آودای جوان نیمه بیهوش و گیج با کمک روحانیان از معبد بیرون آمد تقلای ضعیفش برای نجات بیمعنی و بینتیجه بود مردم دور زن جوان ساز می با باز می خوندن. جمعیت با سر و صدایی کر کننده به طرف تپه های هیزم راه افتادن زن جوان بدون اینکه که مقاومت کنه از هیزما بالا رفت و کنار راجه دراست کشید. مردی برحمن مشعلش رو روشن کرد و زیر اولین هیزم گرفت سرتیب از قم و ناراحتی دست آقای فاگ رو چنگ زد. آقای فاک خیز برداشته بود و آماده حمله بود. همین که خاص بلند شه و تو دل آتش شیرجه بزنه هیاهوی جمعیت بالا گرفت. آقای فاک با تعجب به تپه هیزم نگاه می کرد. راجع اجاب بلند شده بود. و رو پاهاش بود مردم از وحشت فریاد می و پراکنده می هیچکس هیچ کس نداشت کوه آتیش رو نگاه کنه زنده شدن راجه معجزه ای از جانب خدایان بود راجه زن جوانش رو در آغوش گرفت و از سپه هیزون پایید آمد گروه نجات خشکشون زده بود و مات و مفهود به راجه نگاه میکردند راجه مستقیم آمد طرفشون راجه پیر چابک و سرحال بیدوید وقتی نزدیکشون شد فریاد زد قربان زودتر بریم ما شنیدن صدای پاسپارتو ترس همه ریخت پاسپارتو از تاریکی استفاده کرده بود و به جای راجه دراز کشیده بود چند ثانیه این طور کشید تا گروه نجات بفهمند چی شده؟ راجعی واقعی توی آتش می سوخت و خاکستر سر افراد مراسم متوجه ماجرا نشده بودن. گروه نجات باید فرار میکرد با عجله سوار فیل شدن و راه افتادند. گروه تشکی تا فهمیدن چه کلایی سرشون رفته اصله رو در آوردن و دنبالشون کردند. پشت هم شلیک میکردند و فریاد می سدن. یکی از گلوله‌ها به کلاه آقای فاگ خورد فاگ سرش دوزید و دستور داد راهنما تونتر حرکت کنه راهنما که فیلبان ماهری بود با سرعت زیاد از معبد دور میشد و رو جا میگذاشت آدم ربایی با موفقیت انجام شد یک ساعت بعد وقتی از دل خطر گذشتن پاسوارتو به کاری که کرده بود خندید. آقای فق از خدمت گزارش شجاعش تشکر کرد و بهش قول یه پاداش خوب رو داد. بانو آودا همچنان خواب بود و از دور و و اتفاقاتی که افتاده بود بیخبر. فیل با سرعت تو جنگلای تاریک می تا زودتر به اسکاخ برسه. سرتیب نگران آینده بانو آودا بود، اگه آودا در هند میموند دوباره گیر راجه ها میافتاد و تا نمی سوزوندنش بی خیال نمی شدن. حدودای ساعت ده شب به ایستگاه رسیدن خط راهان از ایستگاه ادامه داشت و تا کلکته پیش می رفت. آقای پاک در عرض یک شبانه روز به کلکته می رسید از کلکته سوار کشتی هنگ کنگ می شد. و سفرشو ادامه میداد. هیچ تأخیری تو برنامهش نبود. وقتی به قطار سوار شدن، اول از همه بانو آودا رو توی کوپه گذاشتن تا استراحت کنه. آدا هنوز خواب بود و از دور برش خبر نداشت. آقای فاگ پاسپارتو رو معمول کرد تا برای بانوی جوان کفش و پالتو بخره. پاسپارتو هم از خدا خواسته قبول کرد. اون میتونست کنار خرید شهر رو هم سیاحت کنه. شهری که روزی پرونق بود و صنعت و تجارتش حرف اول رو در منطقه میزد. حالا فقیر بود و مردمش تو فقر و فلاکت زندگی میکردن. پاسپارتو بعد از خرید دوباره برگشت ایسکا. بانو آودا آرام آرام به هوش آمد و چشمان زیبایش را باز کرد. بانو به معنای واقعی زیبا بود. انگلیسی رو خیلی خوب حرف میزد و رفتارش مثل ملکه ها بود. حق راهنما بود. تعلیم رسم و رسومات اشرافی تو رفتارش کاملا مشخص بود. زمان حرکت قطار نزدیک شد. آقای فاک دست دستموز خوبی به مرد راهنما داد و مرخصش کرد. البته خیلی خوب میدونه پولی که به راهنما داده در برابر فداکاری و خطری که به جون خریده بود هیچه اگه راجع ها متوجه می شدن، تو فراری دادن بان و آوداد دستذا داشته حتما ازش انتقام میگرفتن آقای فاک حقیقتا به راهنما مدیون بود قبل از حرکت باید تکیف فیلم روشن میشد موزیوی که آقای فاک از قبل بهش فکر کرده بود. به راهنما گفت مرد پارسی تو به ما خیلی کمک کردی. از خودگذشتگی بزرگی نشون دادی. پول خدمت تو دادم. میمونه پول فداکاریت. فیلو میخوای. چشمان راهنما برقی زد و با هایجان جواب داد چیزی که به من میبخشین؟ ثروت زیادیه آقای پاک گفت: حتی اگر قبولش کنی من بازم بهت بدهکارم. پاسورتو که عاشق فیل شده بود با مهربونی و حسرت گفت گفتهی دوست من قبولش کن حیون خوبیه و بعد هم رفت پیش فیل و چندتا قند بهش داد. فیلم برای تشکر خرتومشو. دور پاسپورتو حلقه کرد و جا بلندش کرد همه زدن زیر خنده و با دلی خوش از راهنما خداحافظی کردند آقای پاک و سرتیب و پاسپارتو سوار قطار شدند همه کنار بانو دانش نشستند و آماده حرکت شدن صدای بوغ قطار بلند شد و قطار آروم آروم راه افتاد بانو آودا در طول راه کم کم به حوش و فهمید کجاست. وقتی خودشو تو لباس و کنار سه مرد قریب دید نزدیک بود است جب شاخ در بیاره. آقای سرتیب تمام ماجرا رو برای بانو آودا تعریف کرد. بیشتر از همه هم روی فداکاری آقای فاگ تأکید کرد. آدا جوان به پهنای صورت اشک میریخت و با تمام وجود از ناجیهاش تشکر می کرد. فکر کردن به مراسم ساتی و زنده زنده سوختن تنش رو میلرزد. آقای پاک ترس و وحشت زن بینوار رو درک می کرد. برای همه پیشنهاد کرد تا هنگ کنگ همراهشون باشه. با اینکه لحظ آنقا فاکس سرد بود، اما بانو آودا به گرمی قبول کرد. آودا گفت یکی از نزدیکانش توی هنگ کنگ زندگی میکنه. خب همونجا موندگار میشه. قطار به ایستگاه بنارس رسید، سرتی پیاده شد تا به سربازانش بپیپنده. موقع خداحافظی برای آقای فاک آرزوی موفقیت کرد، امیدوار بود، دوباره با هم هم شم اما یه سفر کم خطر و بهتر. آقای فاگ با سردی همیشه گیش با سرتیب دست داد و ازش خداحافظی کرد. بانو آودا برکس آقای فاگ با مهربونی و قدشناسی از سرتیب خداحافظی کرد و گفت. هیچ وقت لطفتونو فراموش نمی کنم. تا ابد مدیونتونم. پاسفارتو هم تحت تاثیر قرار گرفت و گفت امیدوارم فرصتی پیش بیاد تا ارادتمو بهتون نشون بدم سرتیب کرومارتی از قطار پیاده شد و قطار بدون معدلی راه افتاد قطار به ایستگاه کلکته رسید آقای پاک دفترش رو برداشت و برنامهش رو بررسی کرد نه عقب بود نه جلو درست طبق برنامه اما به خاطر ماجرای مراسم ساتی دو روز زمانش از دست داده بود و دیگه فرصت نداشت آقای پاک همراه پاسپارتو و بانو آودا از قطار پیاده شد همین که از قطار پیاده شد معمور پلیس جلوشون گرفت و پرسید فیلیاس فاک. آقای فاک گفت بله خودمان آیا این مرد جوان خدمتکار شماست؟ فاک گفت بله مرد گفت هر دوی شما باید همراه هم بیایید آقای فاگ از پلیس سرخواست کرد بانو آودا هم همراه بیاد بنابراین هر سه پشت مأمور پلیس را افتادن و سوار دروشک شدند. تو راه یک کلم هم حرف نزدم. دروشک از شهر سیاه و کثیفی گذشت و تو شهری از شهرهای مستعمره انگلیس جلوی ساختمان اداری ایست مأمور پلیس همه را پیاده کرد و به اتاقی که پنجره هاش نرده داشت راهنماییشون کرد قبل از اینکه از اتاق بره بیرون گفت ساعت هشت و نیم با قاضی ملاقات میکنید بعد هم در محکم بست و رفت پاسپارتو روی صندلی بلو شد و با نا ناامیدی گفت وای گیر افتادیم بانو آودا که خودش رو مقصر میدونست ازشون شون خواست تحویلش کدم تا بیشتر از این تو دردسر نیفتم اما آقای فاک قبول نکرد مصمم بود بانو و تا کنگ همراهی کنه پاسپارتو با کلافگی گفت کشتی سر زور حرکت میکنه آقای فاکم با خونسردی همیشه گیش جواب داد ما هم قبل از ظهر سوار کشتی میشیم لحن قاطع آقای فاک پاسپارتو رو مطمئن کرد و با خودش تکرار کرد البته مسلمه که قبل از زور سواری کشتی میشیم اما ته دلش اطمینا نداشت به کشتی برسم ساعت یازدونی مامور پلیس برگشت بدون حرف زندانیانش را به اتاق بغلی برد سالونه محاکمه پر از مردم بومی و انگلیسی بود آقای پاک پاسپورتو و بانو آودا روی نیم کرد روبهروی جایگاه قاضی و منشی دادگاه نشستند چند دقیقه منتظر موندند تا قاضی رسید پاسوارت تمام مدت با نگرانی به ساعتش نگاه میکرد اقربها تندتر از همیشه حرکت میکردند قاضی پرونده اول رو برداشت منشی دادگاه گفت فیلیاس فاگ آقای فاگ گفت من هستم مونشی پرسید، پاسپارتو حاضر قاضی پرونده رو برقصد و گفت خوبه، دو روز دنبال شما میگردیم تمام قطارای بمبعی رو زیر نظر گرفته بودیم پاسپارتو که حسرش سر رفته بود پرسید جارمه من چیه؟ قاضی جواب داد خیلی سود متوجه میشید شاکیه رو بیارید به دستور قاضی در باز شد و سه روحانی هندو وارد دادگاه شدند پاسپارتو با حرس زیر لب گفت آدمای های پست، نخواستن بانو رو باره بسزنن. شاکی ها روبروی قاضی استادند. منشی دادگاه شکایت نامی علیه فیلیاس فاگ و پاسپارتو خوند. آقای فاگ و پاسپارتو به مقدسات، بی حرمتی کرده بودند، و به اتهام تجاوز به مکان مقدس دستگیر شده بودند آزی پرسید شنیدید؟ جواب داد بله آقا من اعتراف میکنم اما انتظار دارم سر روحانی شاکی هم اعتراف کنند و بگن تو معبد قلچی چی کار میکردن. سر روحانی هندو از همه جاوی خبر با تعجب به هم نگاه کردن. پاسفارتو از کوره در رفت و گفت مسلما باید اعتراف کنن باید بگن میخواستن دنی رو زنده زنده بسوزونن قاضی و منشی گیج و سردر گم به هم نگاه کردم متوجه نمیشدم پاسفارتو از چی حرف میزنه. قاضی جواب داد کدام قربانی کیو میخواستم وسط بمبعی بسوزونن پاسفارتو پرسید بمبعی؟ قاضی گفت، بله، بمبعی، جرم شما ربطی به معبد پلاچی نداره، به معبد مربارحیل بمبعی مربوط میشه. مونشی دادگاه یه جفت کفش رو روی میز گذاشت و گفت، اینم مدرک جرم. پاسپارتو قافلگیر شد، بی اختیار دستش رو به طرف کفش ها کرد و با ذوق گفت، کفشم <تصفيق> پاسپارتو و آقای فاگ ماجرای بنبی رو فراموش کرده بودند و این اشتباه کوچک پاسپارتو باعث شده بود تا کلکته اونا رو تعقیب کنم ماجرا به کاراگاه فیکس برمیگشت وقتی کاراگاه سوار قطار شد حرفهای پاسپارتو رو شنید و تصمیم گرفته بود سفرش رو دوازده ساعت عقب بندازه اینطوری میتونست آقای فاک رو تو هند نگه داره تا حکم جلبش برسه. برای همین رفته بود معبد مالبارحیل و بهشون گفته بود از فرد خاطی شکایت کنن. بهشون قول داده بود در ازای شکایت پول قابل توجهی بهشون بده. همگی سوار قطار شده بودن و دنبال پاسفارتو و آقای فاک راه افتاده بودند. از اونجایی که فیلی از بین راه درگیر ماجرای و اودا شده بود، فیکس و همراهاش زودتر از آقای فاک به کلکته رسیده بودند و ارباب و خدمتکارش رو پیدا نکرده بودن. بیخبری و قیبت آقای فاک فیکس رو ناراحت و سرخورده کرده بود. کم کم مطمئن می شد سارق بانک رو گم کرده. مطمئن بود آقای فاک توی روسایی پناه گرفته. تا آب از آسیا بیفته اما 24 ساعت بعد آقای فاک و پاسپارتو همراه زنی که نمیشناخت از قطار پیاده شدم کارگاه گوشه ای از دادگاه نشسته بود و مشتاقانه ماجرا رو تماشا میکرد اگر پاسپارتو به جمع نگاه میکرد حتما کارگاه رو میشناخت با اینکه حکم جلب هنوز به کلکت نرسیده بود اما شانس با کارگاهفیکس یار بود منشی دادگاه اعتراف پاسپارتو رو ثبت کرده بود پاسپارتو حاضر بود همه چیزشو بده اما کلمهای که گفته بود رو پس بگیره قاضی پرسید به جرم اعتراف میکنید آقای فاک با خونسرتی جواب داد اعتراف میکنیم قاضی پاسپارتو رو به 15 روز حبس و پرداخت مبلغ هنگفتی محکوم کرد. بعد هم فاگ رو به خاطر قبول کردن جرم خدمتکارش به 8 روز حبس جریمه کرد. کارا از نتیجه دادگاه خوشحال بود. 8 روز زمان خوبی بود تا حکم جلب برسه. البته عمر شادیش خیلی کوتاه بود. چون آقای فاگ در جواب حکم دادگاه گفت پیشنهاد وسیقه می کنم با توجه به شهرت خوب و اعتبار آقای فاگ پیشنهاد وسیقه از طرف دادگاه و قاضی پذیرفته شد آقای فاگ و پاسپارت و هر کدوم مبلغ هزار پوند جریمه شدن فیلیاس فاگ ساک ساکه دستیشو باز کرد و دو هزار پوند روی میز گذاشت دو هزار پوند لبخند پیروزی کاراگاه رو روی صورتش خوش کرد پاسفتو هم کفشش از دادگاه پس گرفت و همراه آقای فاک و بانو آودا از دادگاه بیرون رفت. هنوز یک ساعت به حرکت کشتی مونده بود به مسکلی رسیدن. آقای پاک همراه بانو آودا و پاسپارتو سوار کشتی شدند کارگافیکس هم سوار کشتی شد و به خودش قول داد تا آخر دنیا تا هر جا شده، آقای فاک رو تعقیب میکنه قسم خورد تا وقتی حکم جلد نرسیده چشم ازش بر نداره اوضا روی کشتی رنگون خوب بود سرعت کشتی با کشتی مگنولیا برابر بود اما از نظر رفاهی چنگی به دل نمیزد آقای فاکدرش میخواست شرایط خوبی برای بانو آودا فراهم کنه اما امکانات کشتی خیلی کم بود. خوشبختانه سفر با کشتی رنگون کوتاه بود و بانو هم مسافر سختگیری نبود. بانو اودا روزهای اول سفر فرصت کرد آقای فاگ رو بهتر بشتانسه. تو هر موقعیتی به خاطر نجات جونش تشکر میکرد و ارادتشو با آقای فاگ نشون میداد. آقای فاک هم بدون اینکه لهنش لحنش رو تغییر بده با همان خشکه همیشگی به حرفای بانو آودا گوش می‌داد. همیشه هم مراقب بود بانو کم و کسری نداشته باشه هر روز سر ساعت مشخصی به بانو سر می‌زد و حرفاشو گوش می کرد آقای فاک مثل روباتی برنامه ریزی شده معدبانه و محترمانه رفتار میکرد رفتارش بانو رو گیج کرده بود نمیدونست از رفتار آقای فاک چه برداشتی کنه پاسفارتو از رفتار و اخلاقیات عجیب اربابش برای بانو صحبت کرد ماجرای سفر دور دنیا رو هم با آب و تاب تعریف کرد آودا از سمیم قلبش آرزو میکرد آقای فاک محفظ بشه بانو آودا از نژاد پارسی بود. پارسی ها بین هندی ها مقام خاصی داشتند و بیشترشون تاجر بودن. بانو آودا قصداشت هنگ کنگ پیش یکی از اقوام تاجر ثروتمندش بمونه. اما خیلی مطمئن نبود بهش پناه بدن. وقتی درباره نگرانش به آقای حرف زد آقای فاک با خون سردی گفت نگران نباشید همه چی؟ ریاضی بار درست میشه. بانو آودا مات و مپوت با چشمان درست با آقای فاگ غیره شد. چشمهای بانو به زلالی اقیانوس بود. اما انتظار نمیرفت. مردی به خشکی آقای فاک بخواد. تو همچین اقیانوسی شیرجه بزنه. زمان روزهای اول روی کشی طبق برنامه پیش میرفت. کشتی از کنار جزائیران دمون رد میشد جزایری بسیار زیبا، چشمانداز جزایر دمون وغلاده بود. جنگل های نخ و کوه‌های باشکوه، همه رو متعیر کرده بود. کشتی رنگون با سرعت از کنار جزائیران دمون رد شد و به طرف تنگه مالکا حرکت کرد. تنگه مالکا دروازه ورود به چین، اصرراآمیز بود کارگاپیکس امیدوار بود حکمه جرد تو هنگ کنگ به دستش برسه. هنگ کنگ آخری منطقی بود که خاک انگلیس محسوب می شود. اگر آقای فاک از هنگ کنگ بیرون میرفت دیگه دست کسی بهش نمیرسید. کارگافیکس سوار کشی رنگ شده بود. و تمام مدت خودشو از چشم پاسپارتو پنهان میکرد پاسپارتو فکر میکرد کارگاه فیکس تو بمبعی مونده اگه میدید رو کشتی رنگونه شستش خبردار میشد و کار تمام بود شاید هم مواجه شدن با پاسپارتو و گفتن حقیقت به کاراگاه کمک میکرد البته باید با احتیاط آخرین تیرش رو تو تاریکی پرتاب میکرد. از طرفی زنی که آقای فاک رو همراهی میکرد مشکوک بود. کاراگاه دوستاش بدون زن کیه و برای چی همراهشونه. اگه زن رو دزدیده بودن چی؟ اون وقت میتونست آقای فاک رو به جرم آدم رو توقیف کنه. کاراگاه تصمیم گره وقتی کشتی توی سنگاپور توقف کرد به هنگ کنگ تلگراف بزنه و گزارش آدم ربایی رو مخابره کنه. جرم آدم روبایی سنگین بود و با وسیق گذاشتن حل نمی شد. بلاخره بعد از سه روز کشتی به بندر سنگاپور نزدیک شد. اما قبل از ارسار تلگراف کاراگاه باید پاسپارت رو می دید. تصمیمش گرفت و رفت رو پاسپارتو گوشه ای ساده بود و دریارو تماشا میکرد کارگاه با تعجب دوید طرف پاسپارتو و حیجان زده گفت شما تو رنگان؟ پاسپارتو خافلگیر شد و گفت اه، آقای فیکس شمایی؟ تو کشتی چیکار کار میکنی؟ نمیدونستم وقتی تو بنبعی ازتون جدا میشم تو هنگ کنگ میبینم اتون نکنه شما دور دنیا سفر میکنید نه، چند روزی تو هنگ کنگ میمونم برای کاری مجبورم برم هنگ کنگ پس چرا ندیدمتون؟ به خاطر دریازدگی همش رو کابی نمودم انگار آب و هوای اقیانوس هند خیلی با هم سازگار نیست ببینم اربابتون به تو فاک چطوره؟ خوبه، ایشون هم مثل برنامه سفرش دقیقه یه روز هم از برنامه عقب نیستیم خانم جوونی هم همراه خانم جوون؟ پاسپارتو با سمیمیت و سادگی کنار کاراگاه نشست و ماجرای بانو آدا را تعریف کرد. حتی داستان خرید فیل و گذاشتن وسیغرم گفت. کاراگاه فیکس که از بخش دادگاه خبر خودش خودشو به بیخبری زد و گفت. عربابت میخواد جوون جوانو با خودش ببر اروپا؟ نه ما فقط تا کنگ همراهیش میکنیم. کارگافیکس ناامید شد. گزارش آدم ربایی منتفی بود. اما خودش رو نباخت. سعی کرد ناراتی و ناامیدی رو پنهان کنه. وقتی هم پاسپارتو پیشنهاد نوشیدنی داد با کمال میل قبول کرد و ابراز خوشحالی کرد. از اون روز به بعد پاسپارتو و کارگافیکس مرتب هم دیگر رو می دیدن. کارگافیکس سعی می کرد بیش از حد سوال نپرسه و خودش رو بگیره. فقط یکی دو بار فاک رو زیر نظر گرفت. آقای فاک بیشتر وقتش رو تو سالن رنگون می گاهی اوقات هم با بانو آودا روی عرشه می و دریا رو تماشا می کرد. به کاراگا فیکس مشکوک شده بود. به نظرش مواجه شدن دوباره با کاراگا تصادفی نبود. پاسپارتو حاضر بود سر کفشای سنتی شرط ببنده که آقای فیکس تعقیبشون میکنه. وگرنه امکان نداشت با همون کشتی که خودشون سوارش شدن بیاد هنگ کنگ. پاسپارتو به ذهنش خطور نمیکرد آقای فیکس کاراگاه وربابشو به جرم سرقت تعقیب میکنه. فکر میکرد کاراگاه فیکس مأمور اعضای باشگاه سرگرمیه، و برای تایید سفر اربابش تعقیبشون میکنه. به نظرش داستانی که تو ذهنش سرهم کرده بود بی نقص بود. یه لحظه هم به حدس و گمانش شک نکرد. خدمتکار جوان و عربابش ایمان داشت و تو ذهنش اعضای باشگاه سرگرمی رو مرامت میکرد. وقتی هم فهمید چه کشف بزرگی کرده به خودش افتخار کرد. اما تصمیم گرفت چیزی بر بابش نگه نمیخواست تصویر دوستانش رو تو ذهنش خراب کنه بنابراین تصمیم گرفت سربسته و سر فرصت با نیش و کنایه سر صحبت رو با کاراگافیکس باز کنه چهارشنبه شنبه سی اکتبر کشتی وارد تنگه مالاکا شد کشتی رنگان تو خاک سنگاپور لنگر انداخت تا سوخت گیری کنه آقای فاق نصف روز از برنامه جلو بود با افتخار دفترشو باز کرد و نصف روز رو تو زمان ذخیره شده یادداشت. کرد بعد از یاد برداری به پیشنهاد بانو و از کشتی پیاده شدن تا چند ساعتی پیاده روی کنن کاراگا فیکس هم بلا فاصله و نامحسوس پشت سرشون را افتاد باسپارتو به کارگافیکس پوست خندی زد و برای خرید از پیاده شد. آقای پاگ و بانو آودا تو سنگاپور چرخیدند سوار درشکه شدند و مناظر زیبا و تاریخی شهر رو تماشا کردند. از بس محفه تماشای شهر بودن متوجه نشدن کارگافیکس تعقیبشون میکنه. حدود دو ساعت بعد دوباره با درشکه برگشتن اسگله. آسفارتو یک ساعت بعد اربابش با چند و سه میوه به کشتی برکشت. حدود ساعت یازده بوق کشتی بلند شد و از سنگاپور فاصله گرفت. فاصله بین سنگاپور و کنگ قدری زیاد بود. آقای فاک باید شش روزه به هنکونگ میرسید. نباید از کشتی کارناتیک که به مقصد یکوهامای ژاپن میرفت جا میموند. اما متاسفانه کشتی ایرانگان مشکلات زیادی داشت. خیلی از مسافرها به خاطر امکانات ضعیف کشتی مریض شده بودن. بدنه کشتی نازک بود و اگه آب توی کشتی نفوذ میکرد کشتی قرق میشد. برای همین وقتی هوا طوفانی و دریا می میشد کشتی با احتیاط حرکت میکرد و وسط دریا توقف میکرد. توقف های پشت سر هم. و این موضوع آقای فاگ رو بیقرار میکرد چراغ گازی اتاق پاسپارتو هم چند ای بود که به حسابش میسوخت و پاسپارتو از دست توقف ها شده بود بین همین توقف ها فیکس از پاسپارتو پرسید شما برای اینکه برسین هونگ کنگ عجله دارین؟ خیلی زیاد اربابتون عجله داره که زودتر سوار کشتی کارناتیک بشه درسته؟ پاسپارتو عصبی به کلافه جواب داد. خیلی خیلی عجله داره. پس بالاخره سفر دور دنیا رو باور کرد. بله. شما چی؟ کارگرافیک شونهاشو بالا انداخت و گفت. من اعتقادی ندارم. پاسوارتو موزیان لبخن زد. چخان. <تصف> کارگافیک جا خورد؟ یعنی پاسپارتو همه چی رو فهمیده و نقشش لو رفته بود؟ بزرگترین نگرانی کاراگاه آقای فارگ بود یعنی از ماجرا خبردار شده بود کاراگاه رفت و فکر پاسفارتو ضربه دوم رو زد رسی آقای فیکس بعد از اینکه به هنگ کنگ رسیدیم ازتون خدافزی میکنین؟ کاراگاه فیکس دست با چه جواب داد؟ خب ن... ن... نمیدونم نمیدونم شاید اگه همراه ما بیایید برای من سعادت و بزرگیه. مأمور شبه جزیره که نمیتونه وسط را وایسته شما میخواستین بریم بمبئی اما از چین سر در میارین. عجیب نیست؟ آمریکا زیاد دور نیست. از آمریکا تا اروپام یه قدم راهه. نکنه سر از آمریکا در بیارین. کاراگاه هیچ شده بود. سرش تکون داد و برگشت و کابینش. نگران بود. اگه پاسپورتو همه چی رو بر بابش بگه و تمام نقشه نقش بر آب بشه چی میشه؟ با پاسپارتو رو را سرف میزد اینجوری زودتر به نتیجه میرسید و راه حلی پیدا میکرد در کنار نقش چیدنهای کارگاه فیکس و پاسپارتو آقای فاک فقط به سفر دور دنیا فکر میکرد شبیه سایارها دور محور خودش میچرخید و به کسی کاری نداشت کنار ستاره کوچک سوسو میزد ای که میتوانست قلبش رو به تکاپو بندازه البته آقای فاگ واکنشی نشون نبیداد پاسپارتو از این که میدید جذابیت بانو آودا تاثیری روی اربابش نداره خیلی تعجب کرده بود قدردانی و محبت رو توی چشمای بانو میدید اما انگار قلب آقای فاگ برای عشق و عاشقی ساخته نشده بود راه زیادی تا هنگ کنگ نمونده بود که وضعیت هوا خراب شد. کشتی سرعتش رو ده برابر کمتر کرد تا غرق نشه. آقای فاک برخلاف همه مسافرا خونسرد بود و شکایتی نمیکرد. وقتی فهمید کشتی حدود بی ساعت دیرتر به هنگ کنگ می رسه خم و عبرو نیاورد. پاسپارتو بر اکثر اربابش، حسابانی و مسترب بود هر کاری لازم بود برای کشتی انجام می داد تا زودتر به مقصد برسه هر دفعه هم سراغ فشارسنج می رفت فوش می داد و مشتش رو روی فشارسنج می کوبید خوشحال بود با کم شدن سرعت کشتی وقت کافی داشت تا آقای فاگ رو تو هنگ کونگ دستگیر کنه همه مطمئن بودن آقای فاگ به کشتی کارناتیک نمیرسه دریا بعد از چند روز دوباره روی خوشنشان داد و کشتی با نهایت سرعت به طرف هنگ کنگ را افتاد طبق برنامه آقای فاک باید پنجم نوامبر به هنگ کنگ میرسیدن اما ساعت شش صبح ششم نوامبر تو بندر هنگ کنگ لنگر انداختن کشتی رنگون بیست و پنج ساعت تخیر داشت. وقت و آقای فاگ همراه بود. وقتی از کشتی رنگون پیاده شدن، کشتی کارناتیک هنوز بندر بود. کشتی به خاطر مشکل یکی از موتورها با یک روز تأخیر را میافتاد و این خبر خوش پاسپارتور خیلی خوشحال کرد. تا حرکت کشتی 15 ساعت وقت داشتن. آقای فاق هم، وقت داشت تاجر هندی رو پیدا کنه و بانو آودا رو بسپور دستش وقتی از کشتی پیاده شدن اول بانو آودا رو برد هتل تا استراحت کنه از پاسپارتو هم خواست مراقب بانو بخشه خودشم را افتاد تا تاجر هندی رو پیدا کنه اول به بازار بورس سر زد. مطمئن بود تو بازار بورس همه از ساجرای معروف خبر بارند یکی از دلالا تاجر رو میشناخت اما گفت متاسفانه تاجر دیگه تو هنگ کنگ زندگی نمیکنه چند ماهی رفته هلند. آقای فاک برگشت هتل تا ماجرا رو برای بانو آودا تعریف کنه بعد از توضیه ماجرا بانو آودا با زالود گفت آقای فاک چی کار کنم؟ خیلی ساده است میرین اروپا اما نمیخوام مزاحتون خانم شما مزاحم نیستین حضور شما تغییری تو برنامه من ایجاد نکرده آقای فاک بعد از گفتگو با بانو و آودا از پاسپارتو خاص بره بندر و سه تا جا رزرو کنه پاسپورتو بعد از اصلاح ریشش به سبک چینی ها به کشتی کارناتیک رفت وقتی رسید کارگفیکس رو روی اسکیل دید که قدم میزنه پاسپارتو از بیقراری کاراگاه تعجب نکرد. با خودش گفت، مثل این اعضای باشگاه از پیروزی اربابم خیلی راضی نیستند بعد هم با لبخندی بزرگ رفت پیش کارگافیکس فیکس. از اینکه حکم جلب به دستش نرسیده بود ناراحت بود. فقط یه راه داشت. باید هر طور شده آقای فاگ رو توی هنگ کنگ نگه می داشت. پاسپارتو دستش رو روی شانه کارگاه فیکس گذاشت و خیلی خودمونی پرسید خب آقای فیکس میخواییم با ما بیان آمریکا. بله پس بریم جا رزرو کنیم میدونستم نمیتونین از ما جدا شیم. اونا با هم رفتند دفتر حمل و نقل دریایی و چهار تا اتاق رزرو کردند. همونجا فهمیدن تعمیرات کشتی زودتر از موقع تموم شده و هشت شب حرکت میکنند پاسپارتو دستاش رو به هم زد و زو زده گفت چه خوب اینطوری به نفع اربابمه برم زودتر بهش خبر بدم کارگا تصمیم گرفت تمام ماجرا رو به پاسپارتو بگه به نظرش تنها رایی که میتونست آقای فاگ رو توی کنگ نگهداره همین بود وقتی از دفتر کشتیرانی آمدن بیرون پاسپارتو رو دعوت کرد تا گلویی تازه کنم پاسپارتو ساعتشو نگاه کرد هنوز وقت داشت پس با خوشحالی پیشنهاد کارگاه رو قبول کرد کارگاه فیکس پاسپارتو به یکی از مکانهای مخفی شهر بود خونه های قدیمی که ملوانهای خسته و آدمهای ناجور شهر توش جمع می و افیون مصرف می کردن. هر دو پشت میز نشستن و منتظر سفارش شدن پاسپارتو با خیرت به دیواری دود گرفته و آدمهای خمار دور پرش نگاه کرد از کاراگاه پیید بود همچین جایی رو برای خشک و ضروری انتخاب کنه رو شنیده بود دولت چین تمام تلاشش رو کرده تا مکانهای فساد رو تعطیل کنه اما موفق نشده بود دلیلشم انگلیس بود انگلیس پول خوبی از مصرف مواد مخدر به جیب می تجارت افیون تجارت خوبی بود وقتی سفارش را آوردن پاسفارتو دو لیوان پرخورد اما کارگافیکس جانب احتیاط را رایت کرد و با دقت پاسفارتو را زیر نظر گرفت بعد مدتی گرم گرفتن و از حد دری با هم حرف زدن بیشتر حرفاشون در مورد کشتی کارناتیک و ساعت حرکتش بود. وقتی پسپارتو بطری دوم رو خالی کرد، اجاش بلند شد، کمی تلو تلو خورد و گفت آه، آه، باید زودتر به اروابم بگم، ساعت حرکت کشتی عوض شده. یه <تصفيق> لحظه باید موجه مهمی رو با در درمیان بزرم دو حرف میزنید الان وقت ندارم در مورد ارباب به خاگه؟ فخاگه ها پاسپارتو با دقت به صورت کاراگا نگاه کرد برق عجیبی تو چشمه کاراگا فیکس بود پاسپارتو دوباره سر جاش نشست کاراگا فیکس پرسید میدونی من کیم پاسپارتو لبخنده پیروزمندان مندانه ای زد و گفت معلومه پس حالا که میدونی همه چی رو برات توجهش میدم حالا که همه چی رو میدونم میخوای حرف بزنی؟ ایرادی نداره حرف بزن اما قبلش بگم آقایون خودشونو بی خودی تو خطر انداختن. بی خودی؟ انگار نمیدونی پای چه پولی در میونی را میدونم اربابم گفته اگه نتونه دور دنیا رو تو 80 روز بگرده نصف داراییشو به اعضای باشگاه سرگرمی میده. باید بدونین پول بیشتری از نصف دارایی اربابتون واسطه. چشمای پاسپارتو گشاد شد و جا پرید چی؟ آقای فا کل داراییشو گذشته وسط؟ پس نباید بیشتر از این قفلت کنیم. پاسپارتو با عجله از جاش شد تا پیش اربابش بره. اما کارا مانه شد و بطری جدیدی رو باز کرد ببین پاسپارتو پای پنج و پنج هزار پوند در میونه میدونی چقدر پوله اگه موفقشم، شم و جلی اربابتو تو بگیرم دو هزار پوند جایزه بگیرم اگه به هم کمک کنی 500 پوندش رو بهت بدم کمکم کن آقای فاگ رو چند روز سهون کنی نگه دارم میگین؟ آقایون باشگاه سرگرمی به صداقت اربابم شک کردن و براش معمور فرستادن حالا میخوان جلاش رو بگیرن چون پنج و پنج شرط بستن. واقعا که مایه خجانته. میخوان سرمایه اربابم رو هر طور شده بالا بکشن. کارگاه فیکس نیوان دیگهی به پاسپارتو داد. پاسپارتو لیوان رو یه نفس سر کشید و با های جان گفت ارباب من مردش حریف و محترمیه وقتی قولی میده و شرطی میبنده پاش میمونه و از راه درستش پیش میره فیکس به پاسپارتو زل زد و پرسید فکر میکنی من کیم معلومه معمور باشگاه سرگرمی کسی, جو... کسی که عجیر شده راه اروا و صاف کنه چه هم وقتی که فهمیدم چه نقشه‌ای تو سرتونه اما به آقای فاگ چیزی نگفتم کارگافیکس دستش رو روی پیشونیش گذاشت و فکر کرد پاسپارتو صادق و رو راسته معلوم بود هم دست سر نیست نفس عمیقی کشید و گفت حرفای منو خوب گوش کن من مأمور باشگاه سرگرمی نیستم من من بازرس پلییسم از دفتر مرکزی لندن معمولیت دارم، عربابت رو دستگیر کنم اینم برگه معمولیتمه کاراگا فیکس برگه رو به پاسپارتو نشون داد پاسپارتو حاج و باج به برگه زل زد کاراگا باز گفت داستان شرطمندی بهانش آقای فاک باشگاه سرگرمی و شما رو گول زده پاسپارتو با ناباوری پرسید؟ گل زده؟ چرا؟ چند روز قبل از سفرتون پنجا و پنج هزار پونت از باید سرقت شد مشخصات سارقم پیدا شده با آقای فاک پس میزنه پاسپارتو مشتش رو کوبید روی میز چی میگید؟ ارباب من شریفتری مرد جهانه از کجا میدونی؟ تو همون روزی که اربابت سفرش رو شروع کرده سختام شده اربابت بدونه اینکه با خودش کمیدونی برداره؟ با یه سات پر از پول را افتاد تا دور دنیا رو بگرده ولی من... من, من حاضرم به شرافت اربابم قسم بخورم میخوای شریک جرمش بشی؟ میخوای به عنوان همدست بازداشت بشی؟ پاسپارتو سرشو بین دستش گرفت گیج شده بود مطمئن بود در بابش مرد خوبیه کدوم سارقی حاضر میشد جونشو به خطر بندازه تا جونی یه نفر دیگر رو نجات بده پاسپارتو تلاش کرد فکرای بدش رو کنار بزنه. نمیخواست قبول کنه اربابش گناهکاره. آروم پرسید. میخواهی چی کار کنم؟ فقط کمکم کن اربابت رو تو هنگوی نگه دارم تا حکم جلبش برسه. منم قول میدم پاداش دو هزار پوندی رو باها تقسیم کنم. پاسپارتو خیلی زود تصمیمش رو گرفت. با چشمای برفروخته به کاراگافیکس نگاه کرد. دلش نمیخواست به عربابش خیانت کنه با قاطعیت گفت هیچ وقتا نمی همین که خواست از جاش والنشه سرش گیج رفت و نقش زمین شد احساس میکرد نمیتونه ذهنش و جسمشو هیچ جوری کنترل کنه دوباره گفت اگه چیزایی که میگین درست باشه اگه عربابم واقعا دوز باشه بازم قبول نمیکنم. هیچ خیانت کنم من خدمتکارش بودم و خدمتکارش هستم با چشای خودم دیدم چه مرد مهربون و بخشنده ایه. امکان نداره بهش نارو بزنم اگه تمام طلاهای دنیا رو بهم باز بازم قبول نمیکنم. آقای کاراگا این نونا خوردن نداره حرف آخرته قبول نمیکنی؟ نه آقا باشه بابا باشه فرض میکنیم چیزی بهت نگفتم بیا بیا بازم نوشیدنی بخوریم <تصفح> پاسفارتو نیشه است به قدری برف روخت و عصبانی بود که نفهمید زیاد روی میکنه پشت سر هم میخورد تا عصبانیتش فروکش کنه کارگفیکس از کمک پاسفارتو ناامید شده بود باید کاری میکرد تا خدمت کار چیزی بر بابش نگه روی میزهای کناری بساطه دود و افیون براه بود. کاراگاه از ناخوشیاری پاسپارت استفاده کرد و بردش سر اون میز. بعد چند پک سنگین شد و سرش روی میز گذاشت. کاراگاه فیکس پیروز مندانه جاش بلند شد و گفت <تصفيق> آقای فاک وقت زمان دقیق حرکت کشتی کارناتیک رو نمیفهمه. اگرم بخواد سفرش رو ادامه بده، بدون این فرانسوی لعنتی میره. همون موقع که پاسپارتو و کاراگافیکس با هم توی اون خونه خلاف بودن، آقای فاک و بانو آودا تو هنگ هنگ گردش میکردن. بانو آودا قبول کرده بود تا آخر سفر همراهشون باشه. آقای فاک هم جزیات سفر رو سبک و سنگی میکرد. برای خانم سفر با یک ساک دستی کوچک غیر ممکن بود بانو آودا به وسایل سفر احتیاج داشت برای همین آقای فاگ بانو رو برده بود بازار تا خرید کنه وقتی خریدشون تموم شد برگشتن هتل و شام خوردن بعد از شام بانو آودا که از پیاده روی و خرید خسته شده بود از آقای فاگ تشکر کرد آقای فاگ هم لبخند زد و شب خیر گفت آقای تمام شب روز خون گهگایی به ساعتش نگاه میکرد و زیر لب میگفت پاسپار تو کجا خیبیستاده ولی مثل همیشه خون بود اطمینان داشت خدمتکارش هر جا باشه به موقع برمیگرده از طرفی کشتی صبح زود حرکت میکرد و جای نگرانی نبود برای همین نیمه های شب با خیال راحت خوابید صبح روز بعد آقای فاک چشماش باز کرد زنگ خدمتکارش و زد اما پاسپارتویی وجود نداشت آقای فاک با خونسردی ساکش و برداشت و همراه بانو و با تخت روان به بندر رفت کشتی یک ساعت و نیم دیگه حرکت میکرد اما وقتی به اسکل رسیدن دست کشتی خبری نبود کشتی شب قبل حرکت کرده بود قیافه آقای فاک یک ذره هم تغییر نکرد بانو با نگرانی بهش نگاه کرد آقای فاک با لحنه آرومی گفت مهم نیست کاراگافیکس گوشه اسکلی ساده بود و با چشمای تیز فاگ رو زیر نظر گرفته بود دیگه وقتش بود باش با حرف زنه برای همین نزدیک شد و گفت آقا اگه اشتباه نکنم شما هم مثل من از مسافرای رانگون بودین که دیروز رسیده بله درسته فکر بیکردم خدمتکارتون رو اینجا ببینم بانو آودا با نگرانی پرسید میدونین کجاست؟ کارگافیکس با پرسید چی؟ مگه با شما نیست؟ نه از دیروز بر نگشته ممکنه بدون ما سوار کشتی کارناتیک شده باشه پس شما هم میخواستین سواری کشتی کارناتیک بشین منم هم همین قصد داشتم اما متاسفانه کشتی بدون اطلاع دیشب از هنگونگ حرکت کرده باید هشت روز تا حرکت کشتی بعدی صبر کنیم آقای فاک آروم و خونسر جواب داد کشتی کارناتیک تنها کشتی نیست که میره شاپون آقای پاک سریش رو برای کاراگافیک سکون داد و با بانو آودا رفتن دنبال کشتی بگردن ما ماتو مبهود پشت سر آقای فاگ را افتاد تو دلش خدا خدا میکرد کشتی دیگری پیدا نشه آقای فاک تا ظهر به همه جا سر زد و دنبال کشتی گشت اما کشتی به سمت ژاپن نمیرفت آقای فاک ناامید نشد با خونسردی به جستجو ادامه داد بعد از ظهر وقتی خیال کارگفیکس کم کم راحت میشد، فاک رو روی کشتی کوچکی دید باورش نمیشد یعنی آقای فاک با همچین کشتی میخواست برش ژاپن. ناخدا روی عرشه ای ساده بود و کار میکرد. راضی کردن ناخدای کشتی کوچک کار سختی بود وقتی ناخدا با آقای فاک گفت از هنگ کنگ تا یوکوهاما، مسافت زیادیه و در ماه نوام دریاهای چین چین پرتلاتوم و طوفانیه آقای فاک و ناخدا بعد از چند دقیقه صحبت با هم دست دادم کشتی کوچک تا بندر شانگهای میرفت. خوشبختانه تو شانگهای کشتی های زیادی پیدا می شد که به یوکوهاما ما بره آقای فاک به ناخدا گفت اگه به موقع به کشتی برسن پاداش خوبی میگیره حکم جلب خارج از خاک انگلیس به درد بازرس نمیخورد. برای همین تصمیم گرفت دوباره سایه به سایه آقای فاک رو تعقیب کنه برای همین وقتی آقای فاک پیشنهاد داد تا شانک همراهشون باشه با اشتیاق قبول کرد کشتی یک ساعت بعد روی انواج یا شناور بود وقتی کشتی از بندر هنگ کنگ فاصله می سجو چشم روی اسکل رو نگاه میکردم. تا مگر پاسپارتو رو ببینن اما خبری ازش نبود به مهربون مقداری پول به کنسولگری هنگ کنگ و فرانسه سپورت و گفت اگر پاسپارتو به کنسولگری رفت پولو بهش بدن تا بتونه برگرده خونه کاراگافیکس آرزو کر سر کله پاسپارتو هیچ وقت پیدا نشه کاراگاه خوب اسگلر رو نگاه کرد خبری از پاسپارتو نبود حدزد خدمتکار بیچاره هنوزم تو خونه خلاف چرت میزنه سفر دریایی طولانی با کشتی کوچک بادبانی تو دریاهای چین ماجراجویی عجیبی بود اما ناخدا به کشتی کوچکش ایمان داشت آقای پاک هم مثل دریان ورده ایش ساده بود روی ارشه و به قروب اقیانوس نگاه میکرد. بادبان سفید بالای سرش مثل بالهای اوقاب تو باد تکون میخوردند. کارگاه با فاصله از بقیه نشسته بود و غرق فکر بود. اطمینا داشت آقای فاک تو یکوهامان نمیمونه و بلافاصله فاصله سوار کشته سان فرانسیسکو میشه. آمریکا کشور خوبی برای سارقان فراری بود آقای فاگ میرفت آمریکا و هیچ وقت هم دیگه نمیرفت زندان فیکس نمیدونست وقتی به آمریکا رسیدن چه کار کنه اما میدونه تا وقتی حکم جلد به دستش نرسیده یه متر هم نباید از فاگ دور بشه باید وظیفه شد تا آخر انجام میداد خوشبختانه پاسپارتو هم پیش اربابش نبود و کارش راحت تر شده بود. اما ارباب خدمتکار وفادارش رو فراموش نکرده بود. امیدوار بود پاسپورتو سوار کشتی کار شده باشه و تو یوکوهاما همدیگر رو ببینن. ساعت ده شب باد شدیدی وزید خوشبختانه باد موافق مقصد کشتی بود. کشتی با وزش باد سرعت گرفت و اقیانوس رو میشکافت سرعت کشتی از قطار هم بیشتر شده بود اگر وضعیت همینطور میموند شانس با کشتی و آقای فاک یار بود مسافرهای کشتی غذای خوبی خوردن و کم و کسی نداشتند آقای فاک غذاشو با کاراگافیکس فیکس تقسیم میکرد اما فیکس ته دلش از اینکه از پول و غذای یه دوز استفاده میکنه خوشش نمیومد وقتی گفت پول غذاشو خودش حساب میکنه آقای فاک فکر تعارف میکنه بهش گفت نگران نباشین خرج سفرتون از قبل حساب شده همین حرف عذاب وجدان فیکس رو بیشتر میکرد از اینکه مجبور بود تو صورت آقای فاک لبخند بزنه و تظاهر کنه خوشحاله متنفر بود دلش میخواست آقای فاگ رو پشت میله زندان ببینه اما چاره ای نداشت مجبور بود تا موقعی که حکم جلب به دستش برسه شرایط رو تحمل کنه خدمه کشتی که دلشونو برای پاداش صابون زده بودن مثل ساعت کار میکردن و دورو بر آقای فاگ میپلکیدند اما شرایط بر وفق مراد نموند طبق پیشبینی ناخدا طوفان بزرگی تو راه بود موج وحشی هم خبر از طوفان میداد باد جنوبی با سرعت 100 آوری میدازید و موندن روی عرشه رو سخت میکرد وقتی ناخدا مشکل رو با آقای فاگ گفت آقای فاگ با خونسردی گفت باد جنوب به نفع مونه نگران نباشید کشتی با صورت برق از روی موچا حرکت میکرد کشتی کوچک مثل پر توی اقیانوس این بر میشد ناخدا به کارش وارد بود چند باری کشتی رو از غرض شدن نجات داده بود اما به نجاتشون امیدوار نبود کاراگافیکس خیلی ترسیده بود اما بانو آودا هم مثل همسفرش آقای پاکخونسرد بود و ترسی از طوفان نداشت. آقای فاکم جوری رفتار میکرد که انگار طوفان هم جزی از برنامه سفرشه. دمدمای غروب جهت باد تغییر کرد. باد مستقیم به بغل کشتی میخورد و از راه شمال منحرفش میکرد. اوضا به قدری خطرناک شده بود که ناخدا امیدی به پایان سفر و گرفتن پاداش نداشت. کنترل کشتی تو طوفان و رگبار واقعا سخت بود اما مشکل بزرگتری هم وجود داشت مشکلی اساسی مقاومت کشتی کم بود معلوم نبود بدنه چوبی کشتی چقدر در برابر باد و طوفان دوم میاره. با رسیدن شب طوفان شدیدتر شد ناخدا خونسردیش را از دست داده بود و نگران بود نمیدونست چقدر میشه مقاومت کرد و جون سالم بدر برد برای همین تصمیم گرفت با خدمش مشورت کنه بعد از مشورت رفت سراغ آقای فاک و گفت آقای فاک نظرتون چیه تا وقتی طوفان تمام شه تو یکی از بندرها پهلو بگیریم آقای فاک گفت مافقم ناخدا پرسید به نظرتون کدوم بندر بهتره آقای فاک گفت من فقط بندر شانگهای رو میشناسم. چند ثانیه ترکشی کشید تا ناخدا منظور آقای فاگ رو بفهمه وقتی متوجه منظور شد فریاد زد بله حق با آقای فاگه میریم شانگهای. های اون شب وحشتناکتر شب زندگی ناخدا بود کشتی چند بار تا مرز غرق شدن رفت اما ناخدا با مهارت نجاتش داد خورشید هم. جلوی طوفان را نگرفت با روشن شدن هوا با دوباره تغییر جهت داد و سمت جنوب وسید کشت کوچک با تمام سرعت به طرف شانکای حرکت کرد تا بندر شانکای راهی نمونده بود ساحل از لابلای مه قلیز خودنمایی میکرد نزدیک های زور دریا آروم شد بعد از طوفان سخت دیشب بهترین وقت برای صرف نهار بود آقای فاک فقط یک روز وقت داشت تا به یوکوهاما برسه اگه گرفتار طوفان نشده بود چند ساعت پیش به شانگهای رسیده بودند کشتی با تمام سرعت اقیانوس رو طی کرد اما امیدی نبود به موقع برسند. ساعت هفت اصر هنوز چند کیلومتر از شانگهای فاصله داشتند سبر ناخدا تمام شده بود و خستگی امونش رو بریده بود تمام خطرهایی که پشت سر گذاشته بود بی نتیجه مونده بود خبری از پاداشام نبود آقای فاگ با قیافه خونسردش با نگاه میکرد اگه دیر میرسیدن سرمایه زندگیش رو از دست میداد همون موقع از لابلای مه قریز کشتی در حال برکت رو دیدن کشتی از بندر فاصله گرفته بود و به طرف یوکوهاما را افتاده بود ناخدا با ناومدی داد زد لعنتی فقط چند دقیقه دیر رسیدیم آقای فاگ گفت علامت بدین توپ رو برای شلیک آماده کنین پرچم رو تا نیمه بیارید پایین. پایین آوردن پرچم نشانه درخواست کمک بود همه امیدوار بودن کشتی آمریکایی پرچم نیمه افراشتر رو ببینه چند لحظه بعد توپ به فرمان آقای فاگ شلیک شد کشتی پر از بار و مسافر بود اما هنوز دو کابین خالی مونده بود دقیقا همون کابینایی که آقای فاگ رزرو کرده بود وقتی صبح شد خدمه کشتی مردی رو دیدن که با چشمان سرخ و سر و وزع ژولیده از چادر درجه دو آمد ایرون مسافر ژولیده پاسپارتو بود پاسپارتو چطور از اونجا سر در بود شب قبل وقتی کاراگا فیکس پاسپارتو رو را کرد دوتا پیش خدمت پاسپارتو رو روی تخت گذاشته بودند اما پاسپارتوی فداکار حتی توی خواب هم آرام و قرار نداشت ذهن نیمه و درگیر کشتی و کاراگاه و آقای فاک بود برای همین به هر زحمتی بود اجاش بلند شد و خودشو به بندر رسوند درست موقع حرکت کشتی خودشو پرت کرده بود روی پل کشتی و همونجا خوابش برده بود خدمه کشتی که به مسافرای بیبیلیت عادت داشتن بلندش کرده بودن و گذاشته بودنش تو کابینه درجی دو. نصیم صبح دریا خواب رو از سر پاسپارتو پرنده بود. پاسپارتو هم خوشحال که از کشتی جا نمونده بود. اما یادش نبود ساعت حرکت کشتی بر بربابش خبر نداده. برای همین فکر میکرد اربابش تو کابینه. پاسپارتو برفای کارگاه فیکس فکر کرد. به نظرش یک کلمه از حرفاش هم راست نبود. اما نمیدونست ماجرا ماجران رو برای اربابش تعریف کنه یا نه. باید ثبت می کرد وقتی حالش جامعه اومد تصمیم می گرفت. اول از همه باید اربابش رو میدید. دید. پاسپارتو با زحمت اجاش بلند شده بود و روی عرشه رو گشته بود. اما خبری از بانو آودا و عربابش نبود. به خودش گفته بود حتما بانو آودا خوابه. آقای فاک هم چند نفری رو پیدا کرده و مشغول بازیه برای همین با عجله به سالن کشتی رفت آقای فاک توی سالن هم نبود پاسپورتو فکر کرده بود کشتی رو اشتباه سوار شده برای همین رفته بود سراغ ناظر کشتی تو فهرست مسافرا نه اسم بانو آودا بود نه آقای فاک پاسپارتو نمی چه اتفاقی افتاده یعنی بدون اربابش سوار کشتی کارناتیک شده بود. همون موقع بود که همه ماجرا یادش شماده بود. یادش شماد کارگرافیکس با مخدر خوابش کرده بود تا نتونه ساعت حرکت کشتی رو بر بابش خبر بده. حالا اربابش و بانوآودا از کشتی جاونده بودن. کارگاه فیکس آقای فاگ رو تو هنگ کنگ نگه داشته بود تا حکم جلبش برسه. پاسپارتو مطمئن بود در باب شهت رو میبازه و ورشکست میشه. خیلی عصبانی شده بود. خودشو سرزنش میکرد. و کارگاه فیکس رو نفرین زیر لب گفته بود اگر دستم بهش برسه زنده نمیزه بعد سعی کرده بود خون سردیش رو حفظ کنه. باید موقعیتش رو بررسی میکرد و بهترین تصمیم رو میگرفت. کشتی مستقیم می‌بردش ژاپن. فرجه سفرش تا ژاپن پرداخت شده بود، اما پولی همراهش نبود تا به آمریکا. پاسپورتو تمام مدت سفرش با کشتی کارناتیک به جای آقای فاک و بانو آودا هم قضا خورد. جوری خودش سیر میکرد، انگار توی ژاپن قضا پیدا نبیشه. سیزدهم نوامبر کشتی کارناتیک کنار بندر یوکوهاما پهلو گرفته بود پاسپارتو بدون شور و شوق به سرزمین خورشید تابان پاگذاشته بود کاری از دستکشور نبیومد پس باید خودشو به دست تقدیر میسپرد بندر یوکوهاما مثل بندر کلکته و هنگ کنگ پر از مردم اروپایی و آسیایی بود مردمی که پاسپارتو بینشون قریبه یه قریبه بود احساس میکرد تو جزیره ناشناخته پاگذاشته فقط یک راه داشت باید به کنسولگری فرانسه یا انگلیس میرفت اما میترسید اربابش رو به خطر بندازه برای همین رو توی ژاپن شروع کرد بعد از اینکه بخش اروپایی شهر رو رد کرده بود وارد بخش ژاپنی شهر شده بود شهر پر از درخت بود از صدر بگیر تا درخت زیبای گیلاس. حوش کنار شهر معبدهای بزرگی بود که زیر چتر درختان صدر مخفی شده بودند. بچه های با صورت گلنداخت تو خیابون می و بازی می کردن. خیابونها پر از آدم بود. راهبه های بودایی با طبر بزرگ تو شهر را می رفتند. زنها با کیمونو توی شهر قدم میزدند از همه جالبتر افسرهای ژاپنی بودند پلیسا تو ژاپن مقام بالایی داشتند و برای همین لباسهای فاخر میپوشیدند و با غرور توی خیابونها راه میرفتند پاسپارتو چند ساعتی رو بین جمعیت رنگارنگ رنگ قدم زده بود و خوب نگاهشون کرده بود وقتی به خودش عمده بود تو شالیزاری وسیع در حاشیه شهر بود بوی اطر گلها تو شالیزار میپیچید شکوفای صورتی گیلاس با هر باد تو هوا بلند میشدند و میرخصیدند اوقابها بالای درختهای بزرگ پرشاخ و برگ سدر زندگی میکردند شاخهای بید مجدون تو هوا آشفته میشدند و درناها تو هوا پرواز میکردند درنا برای ژاپنیها نماد خوشبختی و طول عمر بود. پاسپارت محو تماشا تماشای شالیزار بود که چشمش به یک دست بنفشه افتاد و گفت خوب، اینم شامم اما گلها بویی نداشتند. برای همین از بنافشه ها صرف نظر کرده بود. خوشبختانه قبل از پیاده شدن از تا جایی که تونسته بود غذا خورده بود. و حالا حالا ها گرسنش نمیشد. پاسورتو دوباره به شهر برگشته بود تا تاریک شدن هوا بین چراغی رنگارنگ خیابان قدم زده بود طالبینها با دوربینشون آسمان را به مردم نشون میدادند. پاسورتو بعد از دیدن شهر برگشته بود لنگرگاه آتش قایخواای ماه گیرا بندر رو قشنگ تر کرده بود. پاسفارتو کنار آتیش گرم ماهیی خوابش برده بود روز بعد از شدت گرسنگی بیدار شده بود باید هر طور شده غذا میخورد. خورد می ساعتیشو بفروشه و غذا گیر بیاره اما دلش راضی نمیشد. حاضر بود از گرستنگی بمیره ولی ساعتش از دست نده. تنها راه پول درابردن آواز خواندن بود. مطمئن بود جاپونی از آواز فرانسوی و انگلیسی خوششون میاد. اما لباساش برای خانندگی دور گرد زیادی شیک و مرتب بود. باید لباسه کهنه پیدا میکرد برای همین رفته بود مغازه سمساری خوشبختانه فروشنده از و شلوار پاسپارتو خوشش اومده بود. لباسشو گرفته بود و به جاش لباس ژاپنی با چند تا سکه تحویلش داده بود. پاسپارتو با پول لباسش یه دل سیر غذا خورده بود و بعدش حسابی فکر کرده بود. دیگه چیزه ارزشمندی نداشت که بفروشه. هیچکس هم حاضر نبود بابت لباس کهنش پولی بهش بده. چاره این نبود. باید زودتر از سرزمین خورشید تابان به آمریکا می رفت. باید راهی پیدا می کرد. تصمیم گرفت بره بندر و به عنوان خدمتکار یا آشپز تو یکی از کشتی های آزم آمریکا کار کنه. باسفر تو یک لحظه هم نکرد. با اجله به بندر یوکوهاما رفت. توی راه فهمید نقشش غیر ممکنه که بود به مردی با سر و وضع آشفته کار بده. کی زمانتشو میکرد؟ از کجا معرفی نامه میابورد؟ درگیر همین فکرها بود که چشمش به پستری افتاد روی پستر به انگلیسی نوشته شده بود گروه اکروبات ژاپنی آخرین روزهای اجرا پیش از حرکت به ایالات متحده آمریکا نمایش دماغ درازها؟ باسوارتو دالت زد خودشه! امریکا! پاسفارتو به نمایش دماغ درازها رفت بعد از ملاقاتش با رئیس گروه به لطف مهارتش تو سیرک قبولش کردم. نمایش گروه آکروبات ژاپنی ساعت سه بعد از ظهر شروع میشد. صدای تبل و ساس ها بلند شده بود پاسورتو وقت نداشت برای نمایش تمرین کنه تنها کاری که از پسش برمی آمد تکیه به شونه های قدرتمندش بود هنوز ساعت سه نشده بود که نیمکت ها پرست تماشاگر شدم. رأس ساعت سه نمایش شروع شد. نمایش آکروبات ژاپنی فرقی با جاهای دیگه دنیا نداشت. ولی جاپونی بهترین آکروبات باس های دنیا بودن. بدن نرم و حرکات هماهنگشون چشم هر بینندهی رو خیره می کرد. نمایش ها پشت سر هم اجرا شدم. پاسپارتو هم با دماغ درازی که به صورتش واس کرده بود، محوه اجراها شده بود. نمایش العاده بندبازی که هنوز سو دنیا مشهور نشده بود معرکه بود. دو نمایش گروه دماغ دراسا لباسای بالدارتنشون میکردن و دماغ درازی به صورتشون میزدند. دماغشون یکی متر طول داشت. بیشتر حرکتها و حفظ تعادل روی دماغهای درازشون اجرا میشد. چند روز پیش یکی از دامق دراسا از گروه رفته بود و پاسپارتو جاشو گرفته بود تنها چیزی که پاسپارتو نیاز داشت زور و قدرت بدنیش بود چون قرار بود گروهی از دامق دراسا روشونش وایسون از اینکه دوباره تو بود احساس اغارت میکرد اما چاره ای نداشت تنها برگ برندش برای رسیدن به آمریکا همین بود پاسپارتو وارد صحنه شد کنارم کاراش که پایه های انسانی بودن دراز کشید دماغ دراست روی همسه شد. حرم انسانی شکل گرفت مردم با زوغ دست می و گروه دماغ دراست رو تشویق می‌کردند. اما هرم فقط چند ثانیه سر پا موند یکی از دماغ دراست جایش را خاری کرد و با سرعت به یکی از تماشاگران نزدیک شد دما دراز خودش رو روی پای یکی از تماشاگران داخت و گفت ارباب ارباب تماشاگر پرسید شما؟ منم آقا پاسپارتو بسیار خوب پسرم، زودتر بریم سبا رو کشتیشیم آقای پاک بعد از دادن خسارت به مدیر گروه همراه پاسپارتو و بانو آودا به بندر رفتند اینکه چه اتفاقی تو بندر شانگهای افتاد قابل حدسه وقتی کشتی به طرف یوکهاما حرکت کرد علامت کشتی کوچک را دید آقای فاک پاداشی را که قولش رو داده بود تمام و کمال پرداخت کرد و سوار کشتی شد روز چهاردهم نوامبر همراه بانو آودا او بندر یوکوهاما پیاده شدند و سراغ کشتی کارناتیک رو گرفتن. باید میفهمیدن پاسپورت پاسپارت سوار کشتی بوده یا نه؟ خدمه کشتی گفتن فردی با مشخصات پاسپورتو روز قبل از کشتی پیاده شده. بانو آودا از شنیدن خبر خوشحال و هیجان زده شد ولی آقای فاگ خیلی سرد گفته بود. وقت زیادی نداریم، کشیه سان فرانسیسکو ساعت هفت حرکت میکنه. اولین جایی که سر زدن کنسولگری فرانسه و انگلیس بود، اما پاسپارتو به اونجا نرفته بود. آقای فاک خیابونای یک گشت، اما خبری از پاسپارتو نبود. دیگه از پیدا کردن خدمتکارش نا امید شده بود. برای همین تو زمان باقی مونده با و آودا به سیرک رفتند. آقای پاک خدمتکار وفادارش رو با سر و شکل موسک نشناخته بود. اما خدمتکار اربابش رو شناخت و خودشو بهش رسوند. وقتی به کشتی رسیدن کلی حرف برای گفتن داشتن. بانو آودا تمام ماجرای سفر رو با آب و تاب تعریف کرد. وقتی اسم کارگا رو آورد فشار خون پاسپارتو بالا رفت. کارگا شانس آورده بود دوره برش نبود. وگرنه پاسپارتو درس خوبی بهش میداد. البته پاسپارتو فکر می کرد وقت مناسبی نبود ماجرای فیکس رو تعریف کنه. برای همین فقط ماجرای مصرف مخدر رو تعریف کرد. از هربابش حسابی مذرت خواهی کرد. آقای فاکم بدون اینکه جوابی بده به و پول داد تا برای خودش لباس بخره و لباس دماقدراسا را تنش در بیاره. کشتی جنرال گرانت آمپایوريان اوشومیشی کافت و به سمت سان فرانسیسکو میرفت. سیستم کشتی خوب طراحی شده بود. موتورهای قویش احتمال هر حادثه ای را به صفر می‌رسوند. برای همین آقای پاک امیدوار بود روز دوم دسامبر سان فرانسیسکو برسه اگه طبق برنامه پیش میرفت یاده دسامبر نیویورک می رسیدند بیستم دسابرم تو بندر لندن پیاده می شددم. اینطور یکم دسامبر توی باشگاه سرگرمی حاضر میشد و قرارشون رو میبرد. خوشبختانه تو کشته جنرال گراند همه چی رو بود و اتفاق غیرمنتظری نیفتاد. آقای فاگ مثل همیشه خون سرد و ساکت بود، اما همسفر جوانش بانو آودا متوجه شده بود حس دلتنگیش با آقای فاگ بیشتر از احساس سیاقرتشنوسی. سکوت و بزرگ بزرگواری آقای فاگ بانو آودا را تحت تاثیر قرار داده بود. بانو خودش رو به احساساتی سپرده بود. که آقای فاگ ازش بیخبر بود بانو آودا به طرز عجیبی به برنامه سفر آقای فاگ علاقمند شده بود برای همین بعضی وقتا با پاسپارتو در مورد سفر حرف میزد. پاسپورتو پاسپارتو متوجه علاقه قلبی بانو آودا به ارباب شده بود برای همین مدام از بزرگواری و فداکاری آقای فاگ حرف میزد. نه روز بعد از اینکه سوار کشتی ژرال گیراند شدند آقای فاک نصف کره زمین رو طی کرده بود. آقای فاک پنجه و دو روز از سفر هشتاد روزش رو پشت سر گذاشته بود. فقط بیست و هشت روز دیگه وقت داشت تا برسه لنتن البته از نظر مسافت دو سه راه رو رفته بود. خوشبختانه مسیر و, و ساران مستقیم و بی خطر بود. کاراگاه فیکس هم نبود تا صد راهشون بشه اما کاراگاه فیکس زیرک دقیقا توی کشتی جنرال گرانت کمین کرده بود کاراگاه وقتی در یوکوهما از کشتی پیاده شد مستقیم رفت کنسولگری حکم جلب بالاخره به دستش رسید حکم با کشتی کارناتیک به یوکوهما رسیده بود کاراگاه فیکس وقتی فهمید حکم توی کشتی کارناتیک بوده از عصبانیت سرخ شد. اگر سوار کشتی کارناتیک شده بودن فیلیاسفاگ رو توی کارناتیک دستگیر کرده بود. حکم جل دیگه ارزشی نداشت چون دیگه تو خاک انگلیس و مصامراتش نبودم. کاراگاه دست به کار شد و نقشه دیگری کشید. طبق نخشه جدیدش اگر آقای فاگ زودتر به انگلیس می رسید به نفع کاراگاه بود. چون حکم جلب تو انگلیس دوباره رو به دست می آورد. کاراگاه تصمیم گرفت تمام تلاشش تلاششو بکنه تا آقای فاگ زودتر به انگلیس برسه. برای همین زود سوار کشتی جنرال گراند شد تا آقای فاگ رو زیر نظر بگیره. وقتی کارگاه چشمش به پاسپارت افتاد از تعجب خشکش زد و تو کابینش پنهان شد اما مخفی کاریش خیلی طول نکشید کارگاه به خیال اینکه جمعیت کشی زیاده رفته بود روی عرشه تا اقیانوس آرام رو تماشا کنه وقتی غرق تماشای دورنمای اقیانوس بود با مشت جانانهای کله پا شد پاسپارتو چند تا مشت دیگه هم زد تا دلش خونک شه وقتی خشمش فروکش کرد گوشه ایستاد تا کارگاه از بلندشه بلند شه کاراگاه با خون سردی لباسش رو تکند و پرسید تموم شد؟ فعلا بله ها. پاس با هم بیا میخوام با حرف بزنم من حرفی با شما ندارم نفع به نفر عربا این حرف پاسپارتور خله سلاح کرد برای همین دنبال کاراگاه را افتاد کاراگاه فیکس هست میمی شد در با پاسپورتو در میان گذاشت به پاسپورتو گفت تمام تلاششو میکنه تا فاگ به موقع به انگلیس برسه کارگاتو داد حکم جلبش فقط تو خاک انگلیس و مستعمراتش اعتبار داره حالا کارگافیکس طرفتار فیلیاس فاگ بود البته تا وقتی که منافع همسو میشد کشیه جنرال گرامس اومد تو بندر در سان فرانسیسکو پهلو گرفت آقای فاک طبق برنامه نه جلو بود نه عقب ساعت هفت صبح روز سوم دسامبر آقای فاک همراه بان آودا و پاسپورتو پاشون رو توی قاره آمریکا گذاشتن اولین کاری که آقای فاک انجام داد پرس ساعت حرکت قطار نیویورک بود قطار رس ساعت شش حرکت میکرد. یازده ساعت وقت داشتن تا سانفرانسیسکو رو ببینند فیلیاسفاگ درشکهای کرایی کرد و به طرف بزرگترین هتل شهر یعنی هتل اینترنشنال راه افتاد پاسپارتو کنار درشک چی نشسته بود و به شهر نگاه میکرد خیابانهای سانفرانسیسکو پهن بودند و خونه‌هاشون کوتاه ساختمانها رو از آجر قرمز ساخته بودن. خیابونها پر از وسیله نقله بود مردم شهر از نژادهای مختلف بودند چینی هندی اروپایی پاسپارتو توقع داشت مردم با هفته راه برند و مثل کابوی ها لباس بپوشند اما توی شهر خبری از لباس کابویی و سرخپوسا نبود وقتی درشكه جلوی هتل ایستاد پاسپارتو حس کرد در انگلیسی توی هتل نهار مفصلی خوردن بعد از نهار آقای فاک و بانو آودا رفتن کنسولگری انگلیس تا گذار را هاشون رو مور قبل از بیرون رفتن اجازه گرفت برای حفظ جونش اسره بخره شنیده بود سرخ پوسا چند باری به قطار نیویورک حمله کردن ارباب خدمتکارشو در تصمیم گیری آزاد گذاشت آقای فاک و بانو آودار را افتادن هنوز خیلی از هتل دور نشده بودن که کاراگافیکس فیکس جلوشون شد کاراگاه خودش رو نشون داد و زیدن آقای فاک شگفت زده شد بعدم گفت قصد داره تا اروپا همراهشون باشه آقای فاک هم با نهایت احترام پذیرفت البته نیت کاراگافیکس فیکس چیز دیگه ای بود نمیخواست لحظه از آقای فاک جداشه برای همین پیشنهاد داد به اتفاق سان فرانسیسکو رو ببینن آقای فاک هم قبول کرد و هر سه با هم راه افتادن وقتی به خیابان مونتگومری بزرگترین خیابان سان فرانسیسکو رسیدن جمعیت زیادی دیدن مردم دو دسته شده بودن و پلاکارد دستشون بود از هر طرف صدای فریاد و زنده می آگه با خرسجو از مردم تو خیابون فهمیدن تظاهرات انتخاباتیه. کاراگا فیکس فیشناد داد بوشهی بیستن تا بین جمعیت له نشم. جمعیت ها لحظه پرشورتر میشد. شد. طرفتاران دو جپه روبروی هم ایستاده بودن و به هم بد و بیراه می همان موقع قطار شهری از وسط جمعیت رد شد. قطار به خاطر فشار جمعیت، از ریل خارج شد خارج شدن قطار از ریل جمعیت را خروشان تر کرد و دو جپه به هم حمله بر شدند تظاهرات تبدیل به دعوا شد همه با صدای بلند داد میزدن و مشتاشون به همدیگه نشون میدادم. جمعیت هر لحظه به آقای فاگ و همراهاش نزدیکتر میشدند یک دقیقه بعد آقای فاق و بانو آودا و کارگافیکس فیکس وسط دو جناح گیر کردند. آقای فاک و کاراگا دور بانو آودا رو گرفتن تا صدمه نبینه. مردم به هم حمله می و با کتک از خجالت هم در می آمدن. آقای فاک و کاراگا هم بین جمعیت گیر کرده بودند و کتک می خوردن. آقای فاق تلاش می کرد از خود اشتفاق کنه. وقتی فشار جمعیت اجازه نمیداد. دستشو بالا ببره مرد ریش خرمزی که روبروش ایستاده بود. مشتشو با تمام قدرت بلند کرد تا تو صورت فاک بزنه. کارگاه فکس که دلش نمیخواست بلایی سر سارق عزیزش بیاد خودشو سپر کرد. مشت مرد ریش خرمز محکم تو سرش فرود اومد و پخش زمین شد. کلاهش از سرش افتاد و زیر پای مردم له شد آقای فاک با نگاه تحقیرآمیزی زیر لب گفت یانکی مرد ریش قرمز صورتشو به صورت آقای فاک چزبند و گفت انگلیسی. آقای فاک گفت بعدا هم دیگر رو میبینیم مرد ریش قرمز گفت هر وقت شما بخواین من حاضرم اسمتون چیه؟ فیلیاس فاک اسم شما چیه؟ پروکتر. بعد از گفتگوی کوتاه کلونل و آقای فاک جمعیت کم کم متفرق شد کاراگاه فیکس از روی زمین بلند شد سرش باد کرده بود و لباساش پاره و کثیف شده بودن کاراگا نگاهی به آقای فاک کرد سرووز آقای فاک هم تعریفی نداشت آقای فاک معدبانه تشکر کرد و به کاراگاه لبخند زد بهش گفت آقای فیکس بهتره بریم لباس فروشی یک ساعت بعد هر دو لباس نوترشون کرده بودن و مثل قبل مرتب بودن آقای فاگ ساعتیشو نگاه کرد چیزی برکت حرکت قطار نمانده بود باید برمیگشتن هتل و شام میخوردن آقای فاگ تندی ای گرفت و هر سه به هتل برگشتم. پاسوارتو زودتر از بقیه به هتل رسیده بود بعد از صرف شام هر چهار نفر با درشکه به ایسکهایی قطار رفتن آقای فاک تو راه از کاراگا پرسید شما کلونر پروکتر رو ندیدین نه دوباره برمیگردیم آمریکا امریکا و پیداش میکنیم درست نیست یه انگلیسی اجازه بده و اینطوری برخورد کنم کارهگا لبخندی زد ولی چیزی نگفت مشخص بود آقای فاک حاضره برای دفاع از غرورش هر کاری بکنه ساعت یک رو به شش به ایستگاه رسیدن آقای فاک قبل از سوار شدن از مهماندار قطار پرسید امروز تو سان فرانسیسکو درگیری پیش نیومده؟ اومده؟ مهماندار گفت نه فقط تظاهرات انتخاباتی بود آقای فاگ پرسید انتخابات ریاست جمهوری بود؟ راهنما گفت نه آقا انتخابات قاضی صلح بود آقای فاک با خودش تکرار کرد انتخاب قاضی سر و سوار قطار شد قطار با سرعت زیاد را افتاد و لا بلای دود سفید محف شد قطار سریوسر پاسیفیک اقیانوس آرام رو به اقیانوس اطلس متصل می کرد مسیر قطار از غرب آمریکا یا یعنی کالیفرنیا شروع می شد و تا نیویورک شرق آمریکا میرفت قطار مسیر اقیانوس تا اوغیانوس رو هفت روزه می کرد آقای فکر امیدوار بود یازدهم دسامبر به نیویورک برسه و سوار کشتی لیورپول بشه واگون قطار مسود بودند. دو طرف واگن صندلی بود بین واگون ها هم راهی برای رفت آمد راحت درست شده بود قطار ساعت شش عصر را افتاد شب تاریک و سردی بود ابرهای قرمز آسوان رو گرفته بودن. به نظر می رسید برفی سنگین در راهه. مسافرها ساکت بودن. چشماشون کم کم سنگین می شد. پاسپارتو و کاراگافیکس کنار هم نشسته بودن. به خاطر اتفاقی که در کنگ افتاده بود روابطشون سرد شده بود. دیگه نه دوست بودن نه علاقهی به دوستی نشون میدادند کاراگافیکس مثل قدیم رفتار می کرد. اما پاسپارتو محتاط عمل می کرد. احتمالا منتظر ای بود تا کاراگاه رو خفه کنه. یک ساعت بعد از حرکت قطار برف گرفت. خوشبختانه بارش برف مشکلی برای حرکت قطار ایجاد نمی کرد. حدود ساعت هشت مهماندار اعلام کرد وقت خوابه. واگن قطار طوری تر شده بود که نیمکت تبدیل به تخت خواب می شد. مسافرا تو تخت خواباشون دراز کشیدن و خیلی زود خوابشون بود. قطار توی سکوت شب از شهرهای کوچک زیادی گذشت از کالیفرنیا رد شد و به رشته کوههای نوادا رسید با طلو خورشید قطار به دل کوهستان رفت ساعت هفت صبح تخت خوابها دوباره تبدیل به نیمکت شده بودن. مسافرا به کوهستان پوشیده از برف نگاه میکردند قطار با سرعت از شهرها عبور میکرد و طبیعت دست نخورده آمریکا خودش رو به رخ میکشید. سر ظهر به ایالت نوادا رسیدن قطار نیم ساعت تو ایستگاه توقف کرد مسافرا وقت داشتن تا در این مدت نهار بخورن و دوباره سوار قطار بشن بعد از صرف نهار فییاسواک و همراهش به واگن برگشتند همگی آروم و ساکت نشستن و به بیرون نگاه کردند قطار به طرف شمال شهر حرکت کرد هنوز خیلی از ایستگاه نوادا دور نشده بودند که قطار دوباره توقف کرد گاومیشها روی خط آهن ایستاده بودند و تکون نمیخوردن. تعدادشون خیلی زیاد بود مسافران مجبور بودند صبر کنند تا گاومیشها از روی ریل بران کنار پاسفارتو کفری شده بود از اینکه به خاطر هزار رست میش ایستاده بودن برده بود اما غیر از صبر کاری از دستشون بر نمیومد. مسافرا از پنجره های قطار آویزون شده بودند تا گاف میشار رو تماشا کنند همه عجلی داشتند و میخواستن قطار زودتر حرکت کنه اما آقای فاگ مثل همیشه خونسرد نشسته بود. پاسفارتو به قدری اسبانی بود که دلش میخواست حسله که از سان فرانسیسکو خریده بود و برداره و تک تک گاومیش ها رو بزنه رژه گاومیش از سه ساعت تمام طول کشید دم آدم غروب بالاخره راه باز شد و وقتی آخرین گاومیش هم از روی ریل رد شد قطار بوغ زد و دوباره راه افتاد تو مسیر از دریاچه نمک یوتا یکی از بزرگترین دریاچه های امریکا رد شد روزها پشت سر هم قطار شهرهای آمریکا رو پشت سر و با سرعت حرکت می کرد بین مسیر مشکلات دیگه هم باعث توقف قطار می شد پاسفارتو به خاطر برفی که بیوقفه بی بارید نگران بود مدام با خودش می چرا اربابم زمستون رو برای سفر دور دنیا انتخاب کرده اگه تابستون بود خیلی راحت بودیم. نگرانی بانو آودا بزرگتر و جدی تر از نگرانی پاسپارتو بود. وقتی قطار تو یکی از ایستگاه ها توقف کرد، بانو آودا کلونل ریش قرمز رو از پشت پنجره دید. کلونل ریش قرمز سوار همون قطاری بود که آقای فاک مسافرش بود. بانو خودشو تو تاریکی پنهان کرد تا کلونل نبیندش. باید کاری میکرد. برای همین وقت آقای فاک خواب بود ماجرا رو با پاسپارتو و کارگافیکس در میون گذاشت کارگا فیکس با صدای بلند گفت کلونل تو قطره مطمئن باشید قبل از اینکه دستش با آقای فاک برسه خودم حسابشو میرسم مشت کلونل تو سر من خورد من بیشتر از آقای فاک از دستش عسبانیام بانو آودا جواب داد آقای فاک اجازه نمیده کسی بهش انتقام بگیره خودش گفت برمیگرده امریکا تا حق کلونل رو بذاره کف دستش اگه کلونل رو ببینه نمیتونیم جلوش رو بگیریم ممکنه اتفاق بدی بیفته نباید بذاریم هم دیگر رو ببینن کاراگاه گفت حق با شماست اگه آقای فاک کلونل رو ببینه سفرش به تغییر میفته و همیچی خراب میشه تو گفت بس به من. اگه بتونیم تا چهار روز دیگه آقای فاگو تو... همون موقع آقای فاگ قلتی زد و چشمانش را باز کرد حرف پاسپارتو نیمه کارمون آقای فاگ از خواب بیدار شد و به بیرون نگاه کرد پاسپارتو خیلی آروم بدون این که و بانو آودا حرفش را بشتبن از کاراگاه پرسید واقعا حاضری به خاطر آقای فاگ کتک کاری کنیم؟ حاضرم هر کاری بکنم تا فاگو سالم به انگلیس برگردم. حرف کاراگافیکس پشش پشتش رو لرزون. چند دقیقه بعد کاراگا فکری به ذهنش رسید خودش رو به آقای فاگ نزدیک کرد و گفت وقتی تو قطاریم زمان کند میگذاره. شما تو کشتی کارپازی میگرده درازه؟ آقای فاگ گفت بله اما اینجا نه کارت دارم نه همبازی. کاراگا کاراگافیکس گفت میشه کارت پیدا کرد. در مورد هموازی هم خانم... بله، من بازی و بلدم. گفت منم هم خوبیم. <زق> <vais thin> من خوبی هم میتونیم بازی کنیم چند دقیقه بعد بازی شروع شده بود آقای فاکتوی بازی چند باری از خانم آودا تعریف کرد تعریف ها باعث تجربه همه شد کاراگا هم بازی کن خوبی بود بازی خوب و هم بازی باهوش آقای فاق رو روی سندلیش نگه می‌داشت. ساعت یازده قطار به جایی رسید که اقیانوس ها به هم می رسیدن. بعد از گذشتن از اقیانوس ها نقبت کوههای راکی بود. گذشتن از پیچ و خمهای کوهستان راکی واقعا سخت بود. هشبختانه برف قد شده بود و جای نگرانی نبود. بعد از خوردن نهار سه بازی دوباره مشغول بازی شدن. خیلی نگذشته بود که قطار سوت بلندی کشید و ایستاد. پاسپارتو از پنجره بیرون رو نگاه کرد اما چیزی معلوم نبود. خدمتکار به دستور اربابش از قطار پیاده شد تا سر و گوشی آب بده. حدود چهل نفر از مسافرا از قطار پیاده شده بودند. کلونل ریش قرمز هم بینشون بود. رئیس قطار و لوکوموتیوران جلوی مسافرا ایستاده بودند. بابا مسئول ایستگاه بحث میکردن پاسپارتو نزدیک شد مسئول ایسکا فریاد زد نمیتونید از روی پل رد بشین پایههای پل سوس شده وزن قطار رو تحمل نمیکنه پلی که در موردش حرف میزدن پل معلق بود نگهبان خطگزارش داده بود کابلهای پل پاره شده هر لحظه ممکنه بریسه. پاسپارتو جرعت نداشت برگرده پیش بابش. و ماجره رو براش تعریف کنه. برای همین صبر کرد تا ببینه چی پیش میاد. کلونل داد زد. نکنه قرار اینجا بمونیم تا زیر پامون علف سبز شه. وصول ایسکا جواب داد. قطار بعدی تو راهه تا شش ساعتی دیگه میرسه. تا ایسکای بعدی پیاده برید. آه از نهاد پاسپارتو بلند شد. مطمئن بود به کشتی لیورپول نمیرسن. مسافرا و رئیس قطار زیر بار نمی رفتند هر کسی پیشنهادی می داد هیچ کس حاضر نبود تو برف و سرمایه استخانسوز تا ایسکاه بعدی پیاده بره بین بحث و جدال مسافرا یکی راه حل عجیبی پیشنهاد داد گفتگر قطار با تمام سرعت از روی پرد بشه وزنش رو پل نمیفته و به سلامت از پل می گذرن. راه پیشنهادی دیوانگی محض بود اما همه با نقشه موافق بودن پاسپارتو پیشنهاد بهتر و عاقلانهتری داشت اما اجازه ندادن پیشنهادش و کنه كنه دستور دادن همه سوار قطار شن پاسپارتو زیر لب فقط قرولون میکرد هباید مسافرا پیاده از رو پل رد شن بعد قطار خالی از رو پل رد شه اینجوری جونه کسی به خطر نمیفته متاسفانه هیچکس پیشنهاد عاقلانه پاسپارتو رو نشنید قطار چند متری رفت عقب تا شتاب بگیره لاکومتیوران با تمام گاز داد و قطار با سرعت برق از روی پل رد شد سرعت قطار به قدری زیاد بود که چهار کیلومتر بعد از ایستگاه بعدی ایستاد وقتی قطار از روی پل رد شد پل مولق پشت سرش خراب شد و از بین رفت سفر آقای فاک طبق برنامه پیش می‌رفت. سه روز و سه شب بود که قطار از سان فرانسیسکو راه افتاده بود. آقای فاک بعد از بررسی برنامه سفر دوباره مشغول بازی شد. شانس یارش بود و تو بازی پشت سر هم برنده میشد آقای فاک دستشو دراز کرد تا کارتشو بندازه که مردی بالای سرش سبز شد. من گفت اگر جای شما بودم اون کارت رو نمی انداختم. آقای فاک، کارگاه و بانو آودا سرشون رو بلند کردن. کلونل ریش قرمز بالای سرشون بایستاده بود. کلونل با پوزخندی گوشهی لبش گفت شما مرد انگلیسی بازم ناومیدم کردین. چرا میخواید کارت سیاه رو بازی کنین؟ چون کار درستیه؟ آقای فاک کارت سیاه و انداخت کلونل باز اگه من بودم قرمزو بازی میکردم. کردم بعد دستش رو کرد تا کارت رو از روی میز برداره و با کنایه گفت شما بازی بلد نیستین شاید تو بازی دیگه ماهر باشم کلونل گفت آقای انگلیسی امتحانش جانیه رنگ بان و آدامه گچ سفید شد پاسفره میخواست مشت جانانه ای بزنه که کاراگاه اجاش بلند شد. آقا یادتون راسه سر کارتون ما منه؟ شما هم هم زدین هم بهم به ناسزا گفتین. آقای فا گفت، آقای افیکس ازتون روز میخوام اما این مسئله فقط به من مربوط میشه. کلونل با ادعای اینکه انتخاب کارتم اشتباه بوده دوباره بهم به توهین کرد. باید جوابشو پس بدم. کلونل ریش قرمز نزدیکتر شد. و گفت بخواین هر جا که مایل باشین با هر اصلحهای که دوست دارین فیلیاس فاک از بیرون رفت کلونل دنبالش را افتاد طبق توافق دوئل تو ایستگاه بعدی انجام میشد قطار تو ایستگاه بعدی ده دقیقه توقف داشت به کافی وقت داشتند تا به هم شلیک کنند بانو آدا نگران بود میترسید بلای سر آقای فاک بیاد آقای فاک به بانو دلگرمی میداد بعد با کاراگاه از واگن بیرون آمد. دوئل به شاهد نیاز داشت. کاراگاه فیکس حاضر بود شاهد باشه. پاسپارت و پشت سر عربابش را افتاد تا براش اصله ببره. وقتی خواستن تو ایسکا پیادشن رئیس قطار جلوشون گرفت و گفت بیست دقیقه از زمان بندی اقبیم تو اسکا توقف نداریم. کلونل پرسید پس ما کجا دوئل کنیم مسئول قطار گفت چرا تو راه دوئل نمیکنید پاسپارتو با خودش فکر کرد اینجا واقعا آمریکااست رئیس قطارم یه آمریکایی اصیله کلونل و شاهدش همراه آقای فاگ و کاراگافیکس و پاسپارتو رفتن ته قطار آخرین واگن فقط ده تا مسافر داشت رئیس قطار معدبانه از مسافر خواست چند دقیقه ای از واگنشون بیرون برن تا آقای فاگ و کلونل با هم تصفیه حساب کنند مسافرا خیلی راحت قبول کردند و از واگن بیرون رفتند هر دو مرد آماده دوئل شدن بودند همین که خواستن هفتیر بکشن صدای تیر از جای دیگری بلند شد انگار صدا از تمام واگنهای قطار می آمد مسافرا با وحشت از واگناشون بیرون اومدن. کلونل و آقای فاگ اصلحه به دست رفتن جلوی قطار. صدای شلیک و دعوا از جلوی قطار می اومد. و سا حمله کرده بودند مسافرهایی که اصلحه داشتن مسلح شدن. ماجمها مکانیک و لوکوموتیوران رو بیهوش کرده بودند. فرمان قطار دست خودش بود و قطار چند برابر سرعت قبل پیش می‌رفت. بقیه غارتگرا هم به زور درهای واگونها رو باز میکردن و با مسافرات تم به تنمی کنگیدن. مسافرات از خودشون دفاع میکردن. بانو آودا یکی از اصله های پاسپارتو رو برداشته بود و شلیش میکرد. قطار با همه سرعتش پیش میرفت. اگر در ایسکای بد توقف نمیکرد، ماجمها برنده جدال میشدن. رئیس قطار شونه به شونه آقای افاقه. می جنگید همون لحظه تیری به شونش خورد قبل از اینکه نقش زمینشه گفت اگر قطار تا پنج دقیقه دیگه وای شکست میخوریم آقای فاگوا با اطمینان جواب داد وای میسه آقای پاک میخواست از باگون بره بیرون که پاسپارتو جلوشو گرفت و گفت آقا کار منه آقای فاک فرصت نکرد جلوی پاسپارتو رو بگیره پاسپارتو زود از واگون بیرون رفع بدون اینکه که توجه کسی رو جلب کنه. از زیر واگون ها رد شد. کار سختی بود اما بدن ورزیده پاسپارتو از پسش بر اومد. وقتی به لوکوموتیو رسید زنجیر ایمنی واگون ها رو جدا کرد. لوکوموتیو با سرعت دیوان وارش زد، سرعت واگون ها کم شد و از لوکوموتیو عقب موندن. مسافرا ترمز سراری را کشیدن و قطار کنار سرباز خانه قلعه ایستاد. همه از قطار پیاده شدند. قارتکرا که قافلگیر شده بودند، پا به فرار گذاشتند. وقتی مسافرا رو سرشماری کردند، سه نفرشون کم بود. یکی از مسافرهای گم شده پاسپورتوی جوان بود. آقای پاک حاضر شد زندگیشو به خطر بندازه تا خدمتکار وفادارشو نجات بده. آقای فاک به سرباز های قلعه گفت اگه کمکش کنن که مسافرهای گمشده را نجات بده پاداش خوبی بهشون میده. سی تا از سرباز حاضر شدند به آقای فاک کمک کنن. آقای فاگ از کاراگاه خواهش کرد کنار بانو هاودا بمونه و مراقبش باشه. کاراگاه هم قبول کرد. آقای فاک با سی سرباز رفت تا پاسپورت رو برگردونه. طبق وعده ای که داده بود اگه سربازها موفق می شدن را ها رو پیدا کنند، پاداش خوبی بهشون میداد. بعد از پایان درگیری همه مسافران رو از قطار پیاده شده بودند. آقای کلونل زخم عمیقی برداشته بود و رفته بود بیمارستان. بانو آده کنار کارگاه فیکس نشسته بود و انتظار میکشید. از وقتی پاسپارتو گم شده بود اشکش نمی نمیومد به نظر بانوآودا آقای فاگ قهرمان بود کسی که جونش برای خدمتکارش به خطر انداخته بود کاراگافیکس یهو به خودش اومد تازه متوجه اشتباهش شده بود آقای فاک رو رها کرده بود تا به بحانه خدمتکارش فرار کنه مدام خودشو و میکرد حماقت کردم خدمتکارش بهش گفته من کاراگاه هم فاگم رفته و دیگه بره میکرده. حالا حالا چجوری بداش کنم؟ چه چجوری اجازه دادم پنها بره؟ من احمقم خیلی احمق. زمان کند و دیر میگذشت گذشت. کاراگاه نمیدونه نمی دونه چه کار کنه. گاهی دلش میخواست همه چی رو به بانو آودا بگه. اما از قضاوتش میترسید. ترسید. با ناامیدی روی نیمکت ایسکاه وارفته بود. ناگهان نور لکوموتیو بین مه قلی ظاهر شد عجیب بود هیچ قطاری تا پردا عصر از ایستگاه رد نمیشد. خدایا قطار خودشون بود که صحی و سالم برگشته بود مسافرا خوشحال شدن دیگه با خیال راحت بقیه سفرشون ادامه میدادن. اما تکلیف سه نفری که گم شده بودن چی میشد آقای فاکچی به خاطر همه این دلائل کارگافیکس و بانو آهودا سوار قطار نشدن. توی ایستگاه راه می و انتظار می خبری از آقای فاگ نبود. هوا سرد بود. برفم تمام شب بارید و همه جرا سفید پوش کرد. شب گذشت و روز رسید. اما آقای فاگ نیامد. بانو آودا ساکه آقای فاگرو تو دستاش نگه داشته بود و فکر میکرد. ذهنش پر از افکار ترسناک بود. کاراگافیکس هم دست کمی از بانو آودا نداشت. روی صندلی ایسکا ولو شده بود و به رو روش زل زده بود. معلوم نبود خواب یا بیدار. بانو آودا و کاراگافیکس فیکس تنها مسافرای نگران ایسکا نبودن و سربازخانه هم نگران نیروهاش بود نمیدونست باید دسته دیگری رو دنبال سربازاش بفرسه یا نه گروهبان تصمیم گرفت کمی سب کنه دمدمای طلو صبح صدای شلیک گلوله همه را از خواب پروند آقای فاگ و پاسپارتو جلوی صف سربازا به ایسگاه نزدیک میشدند آقای فاگ موفق شده بود پاسپارتو رو نجات بده طبق وعده ای که به نگهبانها داده بود پاداشه سربازها رو تمام و کمال پرداخت کرد آقای فاک زمان کمی داشت 20 ساعت از برنامه سفر عقب بود خطار بعدی هم دوازه ساعت دیگه به ایستگاه می رسید آقای فاگ با خون سردی روی لبه تیغ برد و باخت قدم می پاسپورتو سرخورده و سرخورد و غمگیم بود خودش رو مقصر و شکستگی اربابش می دونست از اینکه همه درد سرها رو اون درست کرده بود حساب پوشتاند داشت کاراگافیکس از آقای فاک پرسید. آقا شما واقعا عجله دارین بله. براتون مهم 11 دسامبر سوار شش لیورپول بشین خیلی مهمه آقای فاک، من یه پیشنهاد دارم چطور با سورت به خودمون به نیویورک برسونیم کاراگافیکس تعریف کرد شب قبل وقتی روی نیمکت انتظار میکشیده، مردی بهش پیشنهاد سورت سواری داده بود آقای فاگ از جاش بلند شد و پیش مرد سورتمهران ران رفت. سورتمه هشت نفر ظرفیت داشت. بادبان بزرگی هم روش بود. به نظر محکم و امن بود. تنها مشکل سرمایه کشنده کوهستان بود. آقای فاگ می تحمل سرمای سرمایه سخت برای بانو اودا سخت باشه. خوشبختانه بانو اودا مشکلی با سورتم سواری نداشت. سرما هم قابل پیشگیری بود. معامل خیلی زود جوش خورد. 17 تا ایستگاه اوماها می رفت. بعد از ایستگاه اوماها همه سوار قطار می شدیم و می رفتن شیکاگو. قرار بود کشتی های لیورپول از بندر شیکاگو حرکت کنه. آقای فاک و آودا کارگافیکس و پاسپارتو پتو پیچیده شده سوار سورتمه نشستند. سورتمه با سرعت خیلی زیاد راه افتاد. سرتم سواری عجیب ترین بخش سفر آقای فاک بود. مسافرا مثل بچه گربه و چسبیده بودن تا گرم شن. سکاندار سرتم ماهر و دقیق بود. سورتمه با سرعت سرسام آوری پیش می رفت. سکاندار تمام تلاششو می کرد تا به موقع برسه. فکر پاداشی که آقای فاک وعده داده بود مسمم ترش کرده بود. سورتمه از روی روتانه یخسد رد شد و مستقیم پیش رفت بادبان ها تمام مدت صدا میدادند آقای فاگ آرام گفت عجب آهنگی می زنند پاسپارتو بوشه ای کس کرده بود و سرما میلرزید. تو دلش از کاراگافیکس به خاطر پیشنهاد سورتمه ممنون بود اما بیشتر از همه اربابش رو تحسین میکرد آقای فاک زندگیش رو به خطر انداخته بود تا خدمت رو نجات بده هیچ وقت از خود اربابش رو فراموش نمیکرد بین مسیر گرکای نزدیک رودخانه با دیدن سورتمه بلند شدن و با سورتمه مسابقه دادن پاسفارتو ره به دست کشیک شیک تا حیوانی حمله نکنه. هوا روشن شده بود تا نیم ساعتی دیگه به مقصد می رسیدن. برای همین بادباندها رو جمع کردند تا سورتمه در ایستگاه بیسته. وقتی سورتمه تو برف آرام گرفت سکاندار گفت خب رسیدیم ایستگاه اون طرفه. آقای فاک دست دستات و پاداشی که وعده کرده بود پرداخت کرد. چهار مسافر سورت می تا تو خودشونو به قطار برسونن وقتی قطار به بندر شیکاگو رسید خبری از کشتی لیورپول نبود کشتی و پنج دقیقه قبل حرکت کرده بود آخرین امید آقای فاک و پنج دقیقه پیش رفته بود کشتی دیگه تو بندر نبود که به درد آقای فاک بخوره پاسپارتو خودخوری میکرد فقط برای اربابش خرج تراشیده بود وقتی به ورشکستگی آقای فاگ فکر میکرد خودش رو لعنت میکرد اما ارباب سرزنشش نکرد آروم از جاش بلند شد و گفت فردا بهش فکر میکنیم دنبالم بیایید. آقای فاگ درشکهای کرایی کرد و با همراهانش به شهر رفت وقتی به شهر رسیدن تو هتل اتاق گرفتم همه به غیر از آقای فاک خواب شده بودند صبح روز بعد 12 دسامبر بود آقای فاک فقط نه روز و سیزده ساعت و چهل و پنج دقیقه وقت داشت اگه به موقع به کشیه لیورپول رسیده بود 21 کم دسامبر لندن بود خوشوقان آقای فاک همیشه راه حل خوب پیدا می کرد. صبح از پاسپارتو خاص آماده حرکت باشند. بعدم تنهایی از هتل بیرون رفت. آقای پاک مستقیم به بندر رفت. تمام کشتی ها رو زیر نظر گرفت. کشتی های زیادی آماده رفتن بودن. اما به درد آقای فاک نمی خوردند. آقای فاک به کشتی سریع و مقاوم نیاز داشت. غیلی زود کشتی مورد نظرش رو پیدا کرد. ناخدای کشتی هنری تا مرد میان سال و بد اخلاقی بود. کنار آمدن بهاش کار ای نبود. اما آقای فاک راه حلها رو زود پیدا می کرد. نقط زف ناخدای آمریکایی پول بود و پیشنهاد آقای فاک وصف سنگیست. دو دل بود، اونقدر پیشونیش و خارون تا مثل لبو قرمز شد. بعد از چند دقیه فکر کردن بالاخره قبول کرد. وقتی همریه تا از بندر فاصله می گرفت هر چهار نفر سوار کشتی بودن. وقتی پاسپارتو فهمید اربابش هشت هزار پوند پول بی زبون و یک جا داده آه از نهادش بلند شد. کاراگافی ایک نگران پول بانک بود پولی که تا آخر سفر چیزی ازش باقی نمیموند. روز بعد با روشن شدن هوا مردی روی عرشه موقعیت کشتی را مشخص میکرد. برخلاف انتظار همه به جای ناخدا آقای فاگ روی ارشه بود ناخدا تو کابینش زندانی شده بود و اربده میکشید ماجرا خیلی ساده بود فیلیاسفاگ میخواست بره لیورپول و ناخدا نمیخواست آقای فاگ رو به لیورپول برسونه آقای فاگ به لطف ساک پر از پولش تمام خدمه کشتی رو خریده بود بعد هم ناخدا رو زندانی کرده بود و با نهایت سرعت مسیر لیورپور رو پیش گرفته بود. بعد از زندانی شدن ناخدا خود فاک هدایت کشتی رو به عهده گرفته بود جوری کشتی رو هدایت میکرد که انگار قبلا دریان نورد بوده کشتی هنری تا سریع و مقابلب بود اگه همه چیز خوب پیش میرفت آقای فاک به موقع می رسید تو روزای اول سفر شرایط دریا العاده بود بادای موافق میوزیدن و کشتی با تمام سرعت به سمت لیورپول حرکت میکرد پاسپارتو با کار اربابش سر شوق آمده بود برای همین با همه خوب رفتار میکرد و همه رو میخندود ولی رفتارش با کاراگاه چنگی به دل نمیزد کاراگافیکس برعکس پاسپارتو گیج و سردرگم بود دیگه نمیدونست درباره آقای فاگ چه فکری کنه نتیجه گرفته بود آقای فاک حتما فرار میکنه و مقصدش لیورپول نیست حالا هم سارق بانک بود و هم دزد دریایی کاراگافیکس از ورودش به همچین ماجرای ای پشیمون بود ناخدا همچنان در کابینش اربده میکشید و آقای فاک جوری رفتار می‌کرد انگار از اول ناخدای کشتی بوده. چند روز بعد وضعیت آب و هوا به هم ریخت. مشکلات دوباره خودی نشون دادند. اما فیلیاس فاگ با همون قیافه خونسرد از پسشون برمیومد. آقای پاک دریا نورد ای بود. طبق محاسبات هفتاد و پنج روز از هشتاد روز گذشته بود هنریتا با وجود مشکلات جوی و بادهای سهمگین خیلی از برنامه عقب نبود روز شانزدهم دسامبر مسئول سوخت کشتی با آقای فاگ حرف زد پاسپارت و گوشهای ایستاده بود و اربابش رو نگاه میکرد آقای فاک پرسید مطمئنی؟ مسئول گفت، مطمئنم آقا، دیکای بخار بیست و چهار ساعت کار میکنن، زغال سنگمون تا لیورپول تح میکشه غربان. خدایا، سوخت کشتی تا فردا تمام میشد، پاسپارتو به خودش امید میداد، آقای فاگ از پس این مشکلا برمیاد، دمدمای غروب آقای فاگ مسئول سوخت رو صدا زد و گفت، لطفا شاله سوخت رو زیاد کنید تا تموم بشه. دو روز بعد سوخت کشتی تمام شد و آقای فاگ ناخدا رو روی عرشه آورد. ناخدا از عصبانیت سرخ شده بود. وقتی چشمش با آقای فاگ افتاد مثل بمب منفجر شد و گفت کجای <تصفيق> آقا؟ و دوباره با صدای بلندتر سوالشو تکرار کرد. آقای فاگ با خونسردی جواب داد نزدیک لیورپول ناخدا گفت دست دریایی دریا نورد بی ارزه آقای فاگ بی توجه گفت گفتم شما رو رو عرشه بیارن تا ازتون بخوام کشتیتونو به من بفروشید ناخدا گفت بفروشم؟ به تو؟ میدونی کشتیمو چند خریدم؟ پنجاه هزار دلار. من شست هزار دلار میخرمش مجبورم بسوزونمش سوخت کشتی تمام شده اسم پول؟ مثل آب رواتی شوله های خشم ناخدا رو خاموش کرد تمام دلخوری زود دود شد و رفت هوا معامله کشتی معامله پرسودی بود. ناخدا با لحن آرامی پرسید از کشتی چی برام میمونه؟ آقای فاک گفت بدنه ی آهنی و موتور. قبول میکنید؟ ناخدا گفت بله. ناخدا اسکناس ها رو گرفت. و با ورع شمردهشون بعد با رضایت کامل گفت کشتی دیگه مال شماست همه چوباش به شما تعلق داره آقای پاک یک ثانیه نکرد دستور داد تمام قسمتهای چوبی کشتی رو بسوزونن تکه های چوبی کابین کشتی کنده شد و در آتش سوخ پاسپارتو مثل ماشین تخریب به جون کشتی افتاده بود هر ساعت بخشای جدید کشتی رو می کندن و توی کوره میریختند اما اما هم سوخت کم بود باید فکر دیگه ای تا لیورپول یک روز دیگه راه بود اگه فردا می لیورپول قطار لیورپول رو از دست می دادن. فقط یک روز مونده بود تا 80 روز تمام بشه آقای فاک نخشه دیگه ای داشت میخواست سرطور شده به بندر کوینستان برسه به سوار قطار لیورپول بشه. وقتی کشتی به بندر کوینستان رسید، آقای فاک به همراهاش با عجله سوار قطار سریوسر شدند. طبق برنامه ظهر تو لیورپول بودند. پر لیورپول تا لندن 6 ساعت فاصله بود. وقتی به لیورپول رسیدند، کارگاه فیکس باید چیکار کار میکرد؟ آیا باید فاگ رو دستگیر میکرد؟ کاراگاه تصمیمش رو گرفت فاصلش رو کم کم با فیلیاس فاگ کم کرد و گفت آقای فیلیاس فاگ به نام ملکه شما رو بازداشت میکرد آقای فاگ بازداشت شده بود پاسپارتو تمام مدت خودشو لعنت میکرد اگر حقیقت رو بربابش گفته بود شاید هیچ کدوم از مشکلات پیش نمی آمد، پاسفارتو گریه می کرد، جوری که دل همه به درد آمده بود، بانو آودا هم به خاطر همچین اتهامی اعتراض کرد، اما کاری از دستش بر نمیومد. فقط اشک بود که چشمان زیباش سرازیر می شد، پاسفارتو و بانو آودا تو ساختمان سرد گمرک موندن، می برای آخرین بار آقای فیلیاس رو ببینن. آقای فیلیاس اصفاک تبقیه قانون ورشکست شده بود. اونم دقیقا وقتی که به هدفش نزدیک بود. بیست دقیقه به زهر 21 دسامبر به لیورپول رسیده بود. نه ساعت و رب وقت خودش خودشو به باشگاه سرگرمی برسونه. از لیورپول تا لندن فقط شش ساعت راه بود. آقای پاک تو بازداشکا ساکت و خون سرد نشسته بود. کسی از درونش خبر نداشت. اما در ظاهر منتظر بود. یعنی هنوز به پیروزیش امیدوار بود. آقای پاک به ساعت زل زده بود و حرکت اقربه را نگاه میکرد. با خودش فکر کرد روزنامه ها چی می نویسن؟ ویلی مرد شریف و شکست شده بود. آقای فاک برنامه سفرش را جیبشتر آورد دفتر رو باز کرد و نوشت 21 دسامبر 80 این روز شنبه لیورپول ساعت 11 40 دقیقه صبح وقتی دوباره به ساعتش نگاه کرد ساعت دو بود اگر همون موقع سوار قطار سریع سیر می شد قبل ساعت 845 دقیقه به باشگاه سرگرمی میرسید. ساعت دو سی دقیقه درهای بازداشگاه باز شد بانودا پاسپورتو و فیکس وارد اتاق شدم نفس کاراگاه بالا نمی اومد موهاش به هم ریخته بود و نمیتونست حرف بزنه دست و پا شکسته گفت ببخشید آقا. شما شما و سا سارخ... سارق سه روز دستگیر شده شما شما آزادین آقای پاک تو چشمای کاراگاه نگاه کرد اجاش بلند شد و نزدیکش رفت با همون خونسردی مخصوص به خودش با مشت کوبی تو صورت کاراگاه کاراگاه فکس بیچاره پخش زمین شد ولی چیزی نگفت میدونست حقشه آقای فایک و بانو آودا و پاسپورتو با عجل خودشونو به ایستگاه لیورپول رسوندن. آقای فایک قطار سری و پیدا کرد. فقط پنج ساعت و نیم وقت داشت تا به باشگاه سرگرمی برسه. با عجله سوار قطار شدن و قطار خیلی زود راه افتاد. وقتی آقای فایک از قطار پیاده شد به ساعتش نگاه کرد. ساعت ده دقیقه به نه بود. باید بگم آقای فاک به دور دنیا سفر کرد اما پنج دقیقه دیر رسید فیلیاس شکست خورده بود خونه آقای فاک سوت و کور بود ارباب خانه تنها سرمایه زندگیشو از دست داده بود تلاش میکرد با شکست زندگیش کنار بیاد طبق دستور ارباب اتاقی برای بانو آودا آماده شده بود خدمتکار خونه بدون اینکه کسی متوجه اربابش رو زیر نظر گرفته بود و ازش مراقبت می کرد. اولین کاری که کرد خاموش کردن چراغ گازش بود. صورت حساب چراغ گاز سر به فلک کشیده بود. آقای فاک تو رخت خوابش دراز کشیده بود و چشمانش رو بسته بود. کسی نمی دونست واقعا خوابیده یا خودش رو به خواب زده. بانو آودا یه لحظه هم پرک رو هم نزاشت. پاسپارتو تمام طول شب جلوی در اتاق اربابش کشیک میکشید وقتی صبح شد ارباب به پاسپارتو دستور داد صبحانه بانو آودا را آماده کنه. اما خودش جز چای و دون چیزی نخواست. به بانو آودام هم گفت امروز باید به چند تا کار رسیدگی کنه. و ممکنه تمام روز رو تو اتاقش بمونه. فیلیاس فاک از بانوا اودا اجازه گرفت تا از ملاقاتی با هم داشته باشند. پاسفورتو با دقت به اربای اربش گوش داد و گفت: آقای فاگ تمام ماجرا تقصیر من بود. من من اربا وارام گفت: من کسی رو مقصر نمیدونم. پاسورتا امیدوار بود بانو به آقای فاگ کمک کنه اما بانو آودا امیدی نداشت به نظرش آقای فاگ اصلا متوجه احساساتش نشده بود وقتی ساعت دیواری یازده و نیم رو نشون داد آقای فاگ به باشگاه سرگرمی نرفت چرا باید میرفت کسی تو باشگاه منتظرش نبود طبق قرار دیر رسیده بود اعضای باشگاه چکشو و نقد میکردن. و تمام سرمایش رو صاحب می شدم آقای فاگ شکست خورده بود بار شکستش به قدری سنگین بود که از اتاقش هم بیرون نمیومد. اومد پاسپارتو گاهی از سوراخ در اربابش رو نگاه میکرد و بیقرار بود دیگه کینه ای از کاراگافیکس نداشت تمام کاسکوزه ها رو سر خودش میشکست. فقط خودش رو شما میکرد. کرد گاهی برای اینکه بار گناه و عذاب وجدانش رو کم کنه به بانو آو دا سر میزد و چند کلمی بهاش صحبت می کرد. آقای پاک ساعت هفت و نیمه عصر از اتاقش بیرون اومد آروم و خونسرد در اتاق بانو آو زد و بار دو اتاق شد هر دو ساکت و آرام نشسته بودند و چیزی نمی گفتن. بعد از پنج دقیقه آقای فاک سکوت مرگ بار رو شکست و گفت منو ببخشید که آوردمتون انگلیس او دا گفت آقای فاک آقای فاک دستش رو منشونه سکوت بالا آورد و باز گفت لطفا اجازه بدید حرفمو تموم کنم وقتی تصمیم گرفتم نجاتتون بدم میخواستم بخشی از سرمایم رو بهتون ببخشم میتونستید زندگی آروم و خوشی داشته باشین ولی الان بر شکستم بانو آودا گفت میدونم آقای فای حالا من از شما سوال میکنم شما منو به خاطر اینکه دنبالتون اومدم و سفرتون رو به تأخیر انداختم میبخشین شما باید از هند دور میشدید تا در امان باشید بانو گفت پس فقط نجاتم راضی نمیکنه خودتون موظف میدونین موقعیتم رو تو خارج از هندم تضمین کنی آقای گفت بله هم اوضاع تغییر کرد با این حال از ازتون میخوام مقدار کمی از فولی که برای مونده رو قبول کنید اما خودتون چی؟ من چیزی لازم ندارم برای آیندهتون چه تصمیمی گرفتین؟ هر اتفاقی بیفته مهم نیست بدبختی سراغ آدمی مثل شما نمیاد دوستا خانوادهتون. آقای فا گفت من نه دوستی دارم نه خانوادهی بانو گفت تنهایی خیلی سخت و دردناکه چطور کسی رو ندارین که باهاش درد و دل کنین میگن بودن کنار یه نفر دیگه تعمل سختی ها رو آسون میکنه بله اینطور میگن بانو آودا عجاش بلند شد با آقای فاگ نزیک شد و گفت آقای فاگ دوست دارین دوست و داشته باشین با من ازدواج میکنین آقای فاگ عجاش بلند شد چشمای خون سردش تغییر حالت داد لباش میلرزید و صورتش گل گلنداخته بود بانو آودا منتظر جواب بود حاضر شده بود زندگیش رو برای کسی که نجاتش داده به خطر بدناسه آقای فاک چشمانش و بست تا جلوی نفوذ چشمای آودا دارو بگیره وقتی دوباره چشماش رو باس کرد جواب داد بله بانو دوستتون دارم. به مقدس سرین چیزهای عالم دوستتون دارم. بانو آودا لبخند شیرینی زد. آقای فاک پاسپارتو رو صدا زد و وقتی پاسپارتو وارد اتاق شد آقای فاگ دست بانو آودا رو گرفته بود. لبخند بزرگی رو صورت پاسپارتو نقش بست. نزدیک بود از خوشحالی بال در بیاره. خدمتکار وفادار یک دقیقه هم معطل نکرد. رفت تا برای مراسم ازدواج فردا از کلیسا وقت بگیره تو این مدل لندن درگیر دستگیری متهم بود وقتی سارقه از یه بانک تسکیر شد مردم دوباره یاد آقای فاگ افتادن سهام آقای فاک دوباره صعود کرد خیلی ها می آقای فاک به موقع نمی رسه و قرار رو می باسه کسی هم خبری ازش نداشت اصلا معلوم نبود چه بلایی سرش اومده تنها کسی که مطمئن بود فیلیاسفاگ به موقع برمیگرده همون پیر فلج فلش بود مردم بی صبرانه منتظر بودن روز هشت آدم سفر برسه تا نتیجه مشخص شه برای همین روز موعود اطراف باشگاه سرگرمی قلقل بود مردم از ساعت هشت عصر دم باشگاهی ساده بودن تا فیلیاسفاگ از راه برسه اعضای باشگاه سرگرمی از ساعت نه صبح تو باشگاه جمع شده بودند همه نگران و حیجان زده انتظار می‌کشیدند. وقتی ساعت دیواری بزرگ باشگاه ساعت هشت و بیست و پنج اعلام اعلان کرد آقای مهندس گفت بیست دقیقه بیشتر نمونده بانکدار گفت قطار لیورپول کی رسیده بانکدار گفت ساعت هفت و بیس دقیقه قطار بعدی نیمه شب میرسه لندن اگه آقای فاک سوار قطار هفت و 20 دقیقه بود تا الان میرسید ما تقریبا شرطو بردیم بانکدار گفت بهتره تا هشت و و پنج دقیقه سب کنیم آقای فاگ آدم عجیب و دقیقه هیچ وقت نمیکنه، مطمئنم ثانیه های آخر پیداش میشه با این وجود اکثر اعضا معتقد بودند آقای فاگ قرار رو باخته در قانه کننده کننده‌ایم داشتن فقط پنج دقیقه دیگه تا زمان تعیین شده مونده بود ضربان قلب اعضای باشگاه بالا رفته بود و صدای تاپ تاپ قلبشون رو میشنیدند هیچ کدوم چشم از ساعت بر داشتند یکی از بانک تا را پیشنهاد کرد بازی کنن تا حواسشون پرد شه همه استقبال کردن. سرگرم بازی شدن اما اصلا تمرکز نداشتن و حواسشون پی بازی نبود مدام ساعت رو نگاه میکردن ساعت هشت و چهل و سه دقیقه شد زمان کندو و کشتار میگذشت اعضای باشگاه کارت به دست به ساعت زده بودن سالون آرام بود و بیرون باشگاه قلغله ساعت دقیق باشگاه ریاضیوار سانیه ها رو طی کرد و پیش می رفت یکی گفت هشت و چهل و چهار دقیقه فقط یک دقیقه مونده بود تا شرط رو ببرم از باشگاه با خیل جان سانیه ها رو می شموردن. سانیه ها تون تون رد می شدن تا به زمان مقرر برسن چهل سانیه گذشته بودم ما خبری از آقای فاک نبود چهل و دو چهل و سه چهل و پنج پنجه سانیه آقای فاک هنوز نرسیده بود. سانیه پنجه و پنجم صدای داد و فریاد مردم بلند شد. صدای جیغ و هورا. تمام باشگاه رو پر کرد. آقای فیلیاس فاک رأس ساعت هشت و چهل و پنج دقیقه در رو باز کرد و وارد باشگاه شد. آقایون من اینکام. بله خود آقای فاک بود اما چطوری؟ فردای روزی که آقای فاک رسید لندن خدمتکار شوفر سات تا برای ازدواج از کشیش وقت بگیره وقتی پاسپارتو به خونه کشیش رسید هرچه درزد کسی در باز نکرد حدود 20 دقیقه منتظر من. بعد از ملاقات با کشیش ساعت 835 دقیقه با عجله از خونه کشیش رفت با تمام سرعت دوید و هر جوری بود خودش رو به خونه اربابش رسوند. وقتی رسید کلاهش رو بین راه گم کرده بود. موهاش آشفته بود. پاسپارتو خودش رو به اتاق اربابش رسوند. فلی پرسید. پاسپارتو چی شده؟ پاسپارتو بریده بریده جواب داد. ازدواج، ازدواج، فردا غیر ممکنه. چرا؟ ارباب، فردا، فردا یک شنبه است پاسپورت فردا دوشنبه است نه قربان امروز شنبه است امکان نداره آقا ما یه روز اشتباه کردیم ما چهار ساعت زودتر رسیدیم ولی ولی فقط ده دقیقه وقت داریم خودمون رو به باشگاه برسونیم فلیاسفاک پخت نکرد لباسا شوابس کنه پاسپارتو در کنار اربابش سوار درش کشیدن توی راه دوتا سگ رو گرفتند. زیر گرفتن و با چندتا درشت که تصادف کردند تا رأس ساعت به باشگاه سرگرمی برسند چطور تو محاسبه اشتباه کرده بودند آقای فاک به طرف شرق سفر کرده و به استقبال خورشید رفته بود طبق محاسبات آقای فاک هشتاد بار طلو خورشید رو دیده بود اما اهالی انگلستان هفتاد و نه بار طلوع رو دیده بودند همین موضوع اختلاف ساعت شهرها رو ثابت میکرد اگر ساعت پاسپارتو تاریخ و روز لندن رو هم نشون میداد خیلی زود متوجه اشتباهشون میشدند آقای فاک خیلی, خیلی خیلی خوشحال بود قرار رو برده بود و سرمایش هم برگشته بود اما مهمتر اینکه همسر زیبا و مورد علاقش هم پیدا کرده بود